غورباغی را بخورید نویسنده برایان تریسی مترجم مهدی قراچه داغی دوران شیفتانگیزی است که در آن زندگی می کنیم هرگز به اندازه امروز فرصت مناسب و امکانات برای دستیابی به هدفهایتان وجود نداشته است هرگز در تاریخ انسانی به این اندازه امکان انتخاب نداشته اید در واقع به اندازه کارهای خوب که می انجام بدهید فراوان است که توانایی شما در انتخاب از میان آنها مهمترین عامل تعیین کننده در معفقیت است که می در زندگی خود آن را به دست آورید. اگر شما هم مانند اغلب مردم این روزگار باشید، وقت کافی برای همه کارهایی که می خواهید بکنید ندارید. در حالی که تلاش می کنید به کارهایتان برسید و از آنها جلو بیفتید. کارها و مسئولیتهای جدیدی چونان مد به زندگیتان وارد می شوند. به این دلیل هرگز نمی هر کاری را که لازم است انجام بدهید. شما هرگز بر کارهایتان پیشی نمی‌گیرید. همیشه از انجام دادن بعضی از کارها و مسئولیتها و احتمالاً از بسیاری از آنها عقب هستید. نیاز, نیاز به انتخاب, به انتخاب. به این دلیل و شاید بیشتر از هر زمانی، توانایی شما در انتخاب مهمترین کاری که در هر لحظه باید انجام بدهید و بعد به سرعت و به درستی آن کار را انجام دادن بیش از هر کیفیت و مهارتی میتواند روی موفقیت شما تأثیر بگذارد. آن انسان متوسطی که اولویتها ها را مشخص میکند و کارهای مهم را انجام میدهد خیلی زود از نابغهایی که زیاد حرف میزند. برنامه های عالی میریزد اما کار چندانی صورت نمی‌دهد جلو می‌زند واقعیتی درباره یک قورباغه ها مارک توین زمانی گفت اگر اولین کاری که هر روز صبح می‌کنی این باشد که یک قورباغه را زنده بخوری تمام روز خیالت راحت است که بدترین حادثه آن روز را پشت سر گذاشته ای. قورباغه شما مهمترین کاریست که پیش رو دارید و اگر همین حالا فکری به حال آن نکنید، احتمالاً انجام دادن آن را به بعد موکل خواهید کرد. این همان کار و وظیفه است که میتواند مهمترین تأثیر را بر زندگی شما بگذارد و بلافاصله فاصله نتیجه بدهد. قاعده اول درباره خوردن قرباغه اگر مجبورید دو قورباغه را در یک روز بخورید، اول قرباغه زشت‌تر را بخورید. در واقع این بدان معناست اگر دو کار مهم پیش روی خود دارید، با کاری که سختتر، بزرگتر و مهمتر است شروع کنید. خودتان را عادت بدهید که بلافاصله دست به کار شوید و انقدر مداومت بخرج دهید تا آن کار تکمیل شود و شما به سر وقت کار بعدی بروید. این را به عنوان یک امتحان در نظر بگیرید. فکر کنید چالشی است که باید با آن روبرو شوید. در برابر این وسوسه که کار ساده‌تر را اول انجام بدهید، مقاومت کنید. پیوسته به خود یاداور شوید که یکی از مهمترین تصمیماتی که همه روزه می گیرید، این است که قبل از هر چیز چه کاری را باید بکنید و کدام کار را به بعد محکول کنید تا آن را دیرتر انجام بدهید. آن هم تازه به این شرط که قرار باشد کار بعدی را بکنید. قاعده دوم درباره خوردن قرباخه. اگر مجبورید یک قورباغه را زنده بخورید، فایده ندارد که مدتها به تماشای آن گرباغ بنشینید. راه رسیدن به عملکردهای سطح بالا و بهره‌وری زیاد این است که عادت کنید تا اول کارهای مهمتر و اصلیتر را انجام بدهید. به عبارت دیگر، باید عادت کنید که ابتدا گرباغ را بخورید و بعد به کارهای دیگر بپردازید و زیاد هم وقت را تلف نکنید. بلافاصله دست به کار شبید. در بررسی مردان و زنانی که به سرعت بیشتری ارتقاء درجه می گیرند و حقوقشان افزایش می یابد می بینیم که این افراد از کیفیت عملگرایی برخوردارند این مهمترین خصیصه ای است که این اشخاص در تمام کارهایشان نشان می دهند. انسانهای موفق کسانی هستند که ابتدا به سراغ کارهای دشوارتر می‌روند، خود را عادت می‌دهند که استمرار و پشت کار داشته باشند و عزم خود را جزم کنند تا آن کار را به پایان برسانند. در دنیای ما، خصوص در دنیای تجارت و بازرگانی ما، به شما حقوق می‌دهند تا نتایج ویژه و ملموسی بدست آورید. به شما حقوق میدهند تا کار ارزشمندی بکنید و در حدی که از شما انتظار دارند ظاهر شوید. دست به کار نشدن از جمله مهمترین معزل سازمان های امروزی است. خیلی ها فعالیت کردن را با به نتیجه رسیدن به اشتباه می گیرند. مرتب حرف میزنند در جلسات بیشمار شرکت می کنند و برنامه های عالی می رزند. اما دست آخر هم کسی کاری صورت نمیدهد و به نتیجهی که قرار است برسند، نمی رسند. های موفقیت را در خود ایجاد کنید موفقیت شما در کار و زندگی، بستگی به عاداتی دارد که طی زمان در خود ایجاد می کنید. آدت اولویت ها را مشخص کردن، غلبه بر تنبلی و مسامه کاری، و با مهمترین کار شروع کردن یک مهارت ذهنی و جسمانی است. این است که با تمرین و تکرار حاصل می شود. باید آنقدر تمرین و تکرار کنید تا این عادت در ذهن نیمه حشیار شما جای بگیرد و بخشی همیشگی از رفتار شما بشود. وقتی این تبدیل به عادت شد، حالت خودکار پیدا می کند و انجام دادنش آسان می گردد. عادت شروع کردن و تکمیل نمودن مهمترین کار نتایجی فوری و ادامه دار دارد. شما ذهنن و به لحاظ احساسی و عاطفی به گونه ای تراحی شده اید که با تکمیل کردن کارها به یک احساس مثبت برسید. این شما را شادمان می کند. به شما احساس برنده بودن می دهد. هرگاه کاری را تکمیل می کنید، احساس می کنید که سرشار از انرژی شده اید. اشتیاق و عزت نفس در شما موج میزند در این میان کاری که تکمیل میکنید هر اندازه مهمتر باشد احساس شادمانی اعتماد به نفس و قدرت بیشتری میکنید و از خود و دنیایتان راضی میگردید با تکمیل کردن هر کار و وظیفه مهم در مغز شما اندورفین ترشح می شود این اندورفین به شما وجهه طبیعی میدهد حجوم اندورفین که بعد از تکمیل شدن هر کاری صورت میگیرد به شما احساس مثبت بودن، جذابیت، خلاقیت و اطمینان خاطر بیشتری میدهد. اعتیاد مثبت را در خود ایجاد کنید. در اینجاست که به یکی از مهمترین اسرار موفقیت می رسیم. می توانید به اندورفین به طرز مثبت معتاد شوید می توانید به اعتماد و اطمینان خاطر و صلاحیتی که در خود احساس می کنید عادت کنید وقتی این اعتیاد ایجاد می شود تقریبا بدون اینکه فکر کنید زندگی خود را به گونه ای سازمان میدهید که ابتدا کارها و پروژه های مهمتر را شروع و به انجام برسانید این گونه شما به واقع به موفقیت و تاثیرگذاری می شوید و این یک اعتیاد مثبت است. یکی از راه های داشتن یک زندگی عالی و سرشار داشتن یک شغل موفق و برخوردار بودن از یک احساس عالی این است که به خود عادت بدهید که ابتدا کارهای مهم را شروع کنید و آن را به انتها برسانید. در این زمان است که این رفتار قدرتی از آن خود پیدا می کند. و بعد می‌بینید که انجام دادن کارهای دشوار از به پایان نرساندن آنها آسانتر می می‌شود. راه میانبری وجود ندارد. به یاد آن حکایتی بیفتید که مردی یک موسیقیدان را در خیابانی در نیویورک می‌بیند و از او می‌پرسد چگونه می‌تواند به تالار کارنگی برسد. موسیقیدان در جوابش می‌گوید: تمرین کن آقا، تمرین. تمرین کلید احاطه پیدا کردن بر تمامی مهارت هاست خوشبختانه ذهن شما به یک عزله شباهت دارد هر از آن بیشتر استفاده کنید قدرتمندتر می شود با تمرین می توانید هر رفتاری را بیاموزید و هر عادتی را که مطلوب می پندارید در خود ایجاد کنید سه کیفیت برای شکل گیری یا عادت برای تمرکز کردن به سه کیفیت مهم نیاز دارید که همه آنها آموختنی هستند این کیفیتات عبارتند از تصمیم گیری نظم و انضباط و عزم راسخ قبل از هر کار تصمیم بگیرید که عادت به انجام رساندن کارها را بیاموزید دوم در خود نظم و انضباط ایجاد کنید تا اصولی را که باید بیاموزید با تکرار به اندازه کافی بیاموزید و بر آن مسلط گردید و سرانجام در هر کاری که میکنید عظم جزم داشته باشید تا اینکه عادت در شما مستقر گردد و بخشی از شخصیت شما بشود آنطور که دوست دارید خود را تصور کنید روش خاصی وجود دارد که به طریق آن میتوانید پیشرفت خود را برای رسیدن به شخصی موثر، مولد و کارآمد تسریع کنید لازمی این کار این است که پیوسته به پاداش و اجر و منافع عملگرا شدن با سرعت حرکت کردن و داشتن تمرکز بیشتر فکر کنید خودتان را در قالب کسی ببینید که به سرعت کارهایش را انجام می دهد و در کارش از مداومت و انسجام برخوردار است تصویر ذهنی که از خود دارید روی رفتار شما تأثیر گذار است خود را کسی تصور کنید که می‌خواهید در آینده به او تبدیل شوید تصویر ذهنی شما و به عبارتی برداشتی که از درون از خود دارید تا حدود زیاد عملکرد بیرونی شما را رقم می‌زند جیم کاتکارت که یک سخنران حرفه‌ای است می‌گوید شما هر طور که خودتان را ببینید همان او میشوید بهبودی بیرونی و بهبودی درون امکان پذیر می‌شود همه چیز بستگی به این دارد که در ذهن خود چه تصور و تصویری دارید. شما از یک توانمندی نامحدود برای آموختن مهارتها، توانمندیها و عادت‌های جدید برخوردارید. وقتی به کمک تکرار و تمرین خودتان را آموزش می دهید تا بر تنبلی و دفع الوقت کردن غلبه کنید و مهمترین کارتان را ابتدا به انجام برسانید، به سرعت در جادی زندگی به حرکت در می آیید. و در کار و زندگی موفقیت را تجربه می کنید. گرباغه را بخورید. برای برنده شدن باید از کیفیتی برخوردار بود که همانا داشتن هدف شخص است هرکس باید بداند که چه می خواهد و برای رسیدن به این خواستش اشتیاقی سوزان داشته باشد ناپلئون هیل قبل از اینکه بتوانید قورباغه خود را تعیین کنید و مشغول خوردن آن بشوید باید دقیقاً بدانید در هر زمینه از زندگی خود می به کجا برسید و کدام هدف را تحقق ببخشید. روشنبینی و وضوح احتمالاً بهترین مفهوم در بحروری شخصی است. مهمترین دلیلی که بر اساس آن کسی کار بیشتر و سریعتری انجام می دهد این است که او از هدفهایش آگاهی مطلق دارد و از آن منحرف نمی شود. هرچه به روشنی بیشتری بدانید که چه می خواهید و برای رسیدن به این خواسته چه باید بکنید راحت تر می توانید بر مسامهه و امروز و فردا کردن غلبه کنید. غرباغه تان را بخورید؟ و کارتان را به انجام برسانید یکی از دلایل مهم دفع الوقت کردن و نداشتن انگیزه، ابهام، سردرگمی و ذهن مپم است مشکل این است که نمیدانید قرار است چه کار کنید چگونه عمل کنید و اصلا چرا میخواهید این کار را انجام بدهید باید با تمام قوا از این شرایط فاصله بگیرید و در هر کاری که میکنید به وضوح و روشنی برسید در اینجا به یکی از کلیدهای مهم موفقیت می رسیم. روی کاغذ فکر کنید. تنها حدود سه درصد از جمعیت بالغ هدفهای روشن و مکتوب دارند. این اشخاص پنج تا ده برابر کسانی که در سطح آنها هستند و یا تحصیلات و توانمندیهای بیشتر از آنها دارند موفق می شوند. علتش این است که گروه اخیر هرگز به خود زحمت نمی دهد که خواستهش را دقیقاً به شکلی که هست مکتوب کند فرمول قدرتمندی برای هدف گذاری و رسیدن به آن وجود دارد که میتوانید در باقی مانده عمر خود از آن استفاده کنید این فرمول از هفت قدم ساده تشکیل میشود. برداشتن هر قدم میتواند ثمربخشی و بهردهی شما را دو و سه برابر کند قدم شماره یک تصمیم بگیرید که دقیقاً چه می خواهید. یا برای خودتان تصمیم بگیرید و یا به اتفاق رئیستان بنشینید و در باره ها و هدفهایتان بحث کنید تا دقیقاً بدانید از شما چه توقعی دارند و این توقع از چه اولویتی برخوردار است. به واقع، حیرت انگیز است که چه شماره کسیری از مردم روزهای خود را با انجام دادن کارهای کم ارزش پشت سر می گذارند زیرا در این بحث مهم و تعیین کننده با رئیس خود شرکت نکردند یکی از بدترین استفاده‌های از زمان انجام دادن به طرز عالی کاری است که اصلا نیازی به انجام دادن آن نیست استفان کاوی می‌گوید قبل از اینکه خود را از پله‌های نردبان ترقی بالا بکشید مطمئن شوید که نردبانتان به دیواری که باید تکیه دارد قدم شماره دو یادداشت کنید روی کاغذ فکر کنید وقتی هدفتان را مکتوب می کنید آن را شفاف سازی می کنید و به آن شکل ملموسی می دهید چیزی خلق می کنید که می توانید آن را ببینید و لمس کنید از سوی دیگر هدفی که به شکل نوشته و مکتوب در نیاید یک آرزو و یا یک خیال است انرژی در پس آن وجود ندارد هدف های نشده منتهی به سردرگمی، ابهام، مسیر نادرست و اشتباهات فراوان می شوند. قدم شماره 3 زمان دستیابی به هدف را مشخص سازید. هدف یا تصمیم بدون اینکه مشخص باشد تا چه زمانی می به آن دست پیدا کنید استراری تولید نمی کند. شروع و پایان مشخصی ندارد بدون زمان کاملا مشخص برای رسیدن به هدف و بیانکه برنامه و مسئولیتی برای رسیدن به هدف مشخص باشد به طور طبیعی دفع الوقت می و کار زیادی انجام نمی دهید قدم شماره چهار فهرستی از همه کارهایی که فکر میکنید برای رسیدن به هدف باید انجام دهید تهیه کنید. وقتی به فعالیت جدید فکر میکنید، آنها را هم به فهرست خود اضافه کنید. آنقدر به این فهرست اضافه کنید تا تکمیل شود. فهرست به شما تصویری دیداری از هدف یا کار بزرگتر میدهد. به شما مسیری میدهد که روی آن بدوید و به حرکت درایید. امکان دستیابی شما به هدف را افزایش می دهد و زمینه فراهم می آورد که به موقع و طبق برنامه به هدفتان برسید. قدم شماره پنج فهرست را به یک برنامه تبدیل کنید. فهرست خود را اولویت بندی کنید و ترتیب و ردیف آن را مشخص سازید. چند دقیقه ای وقت بگذارید و به این فکر کنید که ابتدا چه کاری را باید انجام بدهید و کدام کار را می توانید بعدن انجام بدهید. تصمیم بگیرید کدام کار قبل از کارهای دیگر باید انجام شود و بعد از آن چه باید کرد. تعجب می کنید وقتی برنامه را به اجزای کوچکتری تقسیم می کنید چه اندازه کارتان برای رسیدن به هدف ساده تر می شود. با داشتن یک هدف نوشته و مکتوب و برنامهای سازمان یافته که اقدامات شما را نشان دهد در مقایسه با کسی که هدفش را در ذهن خود نگه دارد، با کارایی بسیار بیشتری دست به کار شوید. قدم شماره 6 بلافاصله با توجه به برنامه دست به کار شوید. کاری صورت بدهید. هر کاری را که لازم است بکنید یک برنامه متوسط که با حرارت اجرا شود به مراتب بهتر از یک برنامه عالی است که روی آن اقدامی صورت نگیرد برای اینکه به موفقیتی دست یابید باید دست به شوید قدم شماره هفت مصمم شوید که همه روز کاری صورت بدهید که شما را به هدف اصلیتان نزدیکتر کند. این فعالیت را در برنامه هر روزتان لحاظ کنید. درباره یک موضوع اساسی، چند صفحه مشخص مطلب بخوانید. با چند نفر از مشتریان که از قبل تعدادشان را مشخص کرده اید، تماس بگیرید. ورزش کنید، چند کلمی جدید به زبان دیگر یاد بگیرید. هرگز روزتان را هدر ندهید، به جلو بروید وقتی به حرکت در آمدید، به حرکت خود ادامه دهید متوقف نشوید این تصمیم، این نظم و ترتیب به تنهایی میتواند بر سرعت دستیابی شما به هدفتان بیافزاید و وریتان را افزایش دهد هدفهای مکتوب شده هدفهای روشن و مکتوب شده روی اندیشه شما تأثیر شگفتانگیز بر جای می‌گذارند. به شما انگیزه می دهند تا دست کار شوید. خلاقیت شما را تحریک و تشویق می کنند. انرژی شما را آزاد می کنند و به شما این امکان را می دهند که دست روی دست نگذارید و دفع الوقت نکنید. هدفها در حکم سوخت در تنور موفقیت هستند. هرچه هدفهایتان بزرگتر باشد، هرچه هدفهایتان روشنتر باشد، از دستیابی به آنها بیشتر به هیجان می هرچه بیشتر به هدفهایتان فکر کنید، انگیزه درونی و میل شما برای به انجام رساندن آنها بیشتر می شود. به هدفهایتان فکر کنید و همه روز آنها را مرور نمایید. هر روز صبح وقتی زندگی را از سر میگیرید با مهمترین وظیفه و کاری که پیش رو دارید شروع کنید و آن را به انجام برسانید. ور باعث آب یک همین حالا یک ورق کاغذ تمیز بردارید و روی آن ده هدفی را که برای سال آینده خود در نظر گرفته اید بنویسید. هدف‌هایتان را به گونه‌ای بنویسید، انگار که سالی را گذرانده اید و حالا هدف‌ها اینیت کردهاند از زمان حال ساده استفاده کنید. جملات باید مثبت و با فاعل اول شخص مفرد باشند تا ذهن نیمه حسیار شما به فاصل آنها را بپذیرد. مثلا بنویسید من یک دلار در سال درامت دارم. یا من X کیلوگرم وزن دارم. یا من فلان اتومبیل را می رانم. دو حالا دوباره فهرست هدفهایتان را مرور کنید و ببینید کدام هدف است که اگر به آن برسید زندگیتان متحول می شود این هدف را روی ورقه دیگری بنویسید زمان دستیابی به آن را مشخص سازید برنامهی طراحی کنید دست به کار شوید و بعد همه روز کاری صورت دهید که شما را به هدفتان نزدیک تر کند این تمرین به تنهایی می تواند زندگیتان را متحول سازد هر روز را از قبل برنامهریزی کنید برنامه‌ریزی آوردن آینده به زمان حال است تا بتوانید کاری درباررش انجام دهید آلن لاکی لابد این سوال را قبلا شنیده اید. چگونه یک فیل را میخورید؟ و جوابش البته این است لقمه لقمه چگونه بزرگترین و زشتترین قرباقه تان را می خورید؟ به همان شکلی که توضیح دادم آن را به اجزای قدم به قدمی تقسیم می کنید و بعد با جزء اول شروع می کنید ذهن شما، توانایی شما برای فکر کردن، برنامه ریزی و تصمیم گرفتن، قدرتمندترین ابزار قلبه بر مسامه کاری و بالا بردن بهرهوری و اثر بخشی است. توانایی شما در هدف گذاری، برنامه ریزی و دست بکار شدن و اقدام کردن، مسیر و جریان زندگی شما را مشخص می سازد. همان عمل فکر کردن و برنامه ریزی نمودن قدرتهای ذهنی شما را آزاد می بر خلاقیت شما می و انرژی ذهنی و فیزیکی شما را افزایش می بر برعکس، به قول آلیکس مکنزی، عمل بدون فکر کردن سببساز همه مسائل است. توانایی شما در برنامه ریزی قبل از دست بکار شدن، معیار و نشانی صلاحیت کلی شماست. هرچه برنامه بهتری داشته باشید، راحتتر میتوانید بر مسامه کاری غلبه کنید، دست بکار شوید، غرباغه را بخورید و بعد به حرکت خود ادامه دهید. بر بازدهی انرژی خود بی افزاید. یکی از هدفهای اصلی شما در زمینه کار و شغلتان باید این باشد تا بیشترین بازده را از سرمایه خود در زمینه انرژی ذهنی، احساسی و فیزیکی به دست آورید. خبر خوب این است. هر دقیقه که صرف برنامه ریزی می شود، ده دقیقه در کار اجرایی صرف جویی می کند. حدود ده تا دوازده دقیقه طول می کشد تا روزتان را برنامه ریزی کنید. اما این سرمایه گذاری کوچک دست کم روزانه دو ساعت یعنی صد تا 120 دقیقه در وقت شما سرفجوی می کند. احتمالاً شما هم این گفته را شنیده اید. برنامه ریزی صحیح از قبل از عملکرد ضعیف جلوگیری می کند. اگر به این نکته توجه کنید که برنامه ریزی تا چه اندازه می تواند بر اثر بخشی و بهرهوری شما بیفزاید، حیرت انگیز است که می بینیم تنها معدودی از مردم برای هر روزشان برنامه ریزی می کنند. و این در حالیست که برنامه ریزی کار ساده است به تنها چیزهایی که احتیاج دارید یک برگ کاغذ و یک قلم است بزرگترین و پیچیده ترین برنامه های کامپیوتری و یا برنامه ریزی زمان مبتنی بر همین اصل است قبل از شروع هر کار باید بنشینید و فهرستی از همه کارهایی که باید انجام دهید تهیه نمایید. همیشه با مراجعه به فهرست خود شروع کنید. وقتی امور جدیدی مطرح می شود، قبل از آنکه درباره کاری صورت دهید، آن را هم به فهرست خود اضافه کنید. درست؟ از همان روزی که با مراجعه به فهرست خود شروع می کنید، می توانید 25 درصد یا بیشتر بر بهرهوری خود بیافزایید. فهرست خود را شب قبل و در پایان روز کاریتان تهیه کنید. آنچه را که هنوز انجام نداده اید، به فهرست کارهای روز بعد خود اضافه کنید و بعد هر کاری را که باید روز بعد انجام دهید، در نظر بگیرید. وقتی فهرست خود را از شب قبل تهیه می کنید، ذهن ناحشیار شما در تمام طول شب و در حالی که شما در خواب هستید، روی فهرست شما کار می کند. اغلب اوقات با ایده‌های عالی و فراست زیاد صبح از خواب بیدار میشوید و می‌توانید بیش از حدی که فکر می‌کردید کارتان را بهتر و سریعتر انجام بدهید. هرچه زمان بیشتری صرف تهیه فهرست مکتوب کارهایی که باید بکنید بنمایید، کارایی و اثر بخشی بیشتری پیدا می‌کنید. فهرست های مختلف برای مقاصد متفاوت برای مقاصد مختلف به فهرست‌های متفاوتی احتیاج دارید. ابتدا باید یک فهرست اصلی تهیه کنید و روی آن بنویسید که کارهایی را که باید در آینده انجام بدهید کدامند. اینجا مکانیست که همه ایده ها و مسئولیت را که به ذهنتان میرسد درج میکنید. بعدن میتوانید فهرست خود را طبقه بندی کنید. دوم باید یک فهرست ماهانه داشته باشید. این فهرست را در پایان ماه برای ماهی که در پیش دارید تهیه کنید. این فهرست میتواند شامل اقدامی باشد که آن را از فهرست اصلی خود برگزیده اید. سوم باید یک فهرست هفتگی داشته باشید. در این فهرست، شما برنامه تمام مدت هفته ای را که در پیش دارید، برنامه ریزی می کنید. این فهرست در حال اجرا برای هفته جاری است. این نظم برنامه ریزی روشمند می‌تواند برای شما بسیار مفید باشد. خیلی ها به من گفتند که عادت وقت صرف کردن دو سه ساعت برای برنامه ریزی هفته آینده، در آخر هر هفته وری آنها را به مقدار فراوان افزایش داده و زندگیشان را به طور کلی متحول ساخته است. این روش برای شما هم مسمر سمر واقع می شود. و سرانجام باید اقلامی را از فهرست های ماهانه و هفتگی به فهرست روزانه خود اضافه کنید. اینها فعالیت هایی هستند که قرار است روز بعد انجام بدهید. وقتی طی روز کار می کنید، هر کاری را که تمام کردید، آن را علامت بزنید. این اقدام سبب می شود تا تصویری مرعی از کارهای به اتمام رسیده خود به آورید. وقتی ببینید که طبق فهرستی که تهیه دیدید، حرکت می کنید، به شما انگیزه و انرژی می دهد. عزت نفس شما را بالا می برد. بر حرمت نفستان می افساید. به تدریج و به آرامی پیشرفت مرعی شما را به جلو سوق می دهد و به شما کمک می کند که بر مسامه کاری خود غلبه کنید. برنامه, برنامه ریزی برنامه یک پروژه, پروژه. وقتی ای پروژه در اختیار دارید، فهرستی از همه اقداماتی که باید انجام دهید تا پروژه از شروع به انتها برسد تهیه کنید. فعالیتهای موجود را اولویت بندی و ردیف کنید. آنها را روی کاغذ در برابر دیدگانتان قرار بدهید یا آنها را در کامپیوتر خود وارد نمایید به طوری که بتوانید آنها را ببینید و بعد کارها را جزء به جزء و مرحله به مرحله انجام بدهید. تعجب می کنید که چقدر با این روش می توانید کار انجام بدهید. وقتی طبق فهرست خود کار می کنید، به طرز فضاینده احساس می کنید که معصرتر و مثبت‌تر شده اید. احساس میکنید که بیشتر سررشته امور زندگیتان را در دست دارید. طبیعتا انگیزه پیدا میکنید که کار حتی بیشتری صورت بدهید، بهتر و خلاقتر فکر میکنید و به بینش بالاتری دست مییابید و این به شما امکان میدهد که حتی سریعتر کار کنید. وقتی به تدریج از روی فهرستهای خود کار میکنید، حرکت به جلوی مثبتی فراهم میآورید. و این به شما امکان می که از دفع الوقت کردن و امروز و فردا کردن فاصله بگیرید این احساس پیشرفت به شما انرژی بیشتری می‌دهد تا در تمام مدت روز به کارتان ادامه بدهید یکی از مهمترین قواعد درباره بهرهوری شخصی قاعده ده به نود است بر اساس این قاعده اولین ده درصد زمانی را که صرف برنامه ریزی و سازماندهی کارتان می کنید، 90 درصد در انجام دادن کارتان صرفه جویی میکنند. باید این قاعده را امتحان کنید و درستی آن را به خودتان ثابت نمایید. وقتی هر روزتان را از قبل پیش بینی میکنید، کار کردن و ادامه کار برایتان ساده تر می میشود. کار سریعتر و هموارتر از قبل ادامه پیدا میکند. احساس قدرت و صلاحیت بیشتری میکنید و سرعت کارتان بیش از حدی که تصور میکنید میشود. و سرانجام در موقعیتی قرار میگیرید گیرید که متوقف ناشدنی می شوید گرباغه را بخورید امروز را صرف برنامه ریزی از قبل درباره فعالیت‌های فعالیتهای روزانه، هفتگی و ماهانه بکنید برگه کاغذی بردارید و فهرستی از همه کارهایی که باید در 24 ساعت آینده انجام بدهید تهیه کنید موارد جدیدی را که به ذهنتان میرسد به فهرست اضافه کنید فهرستی از همه پروژه ها، کارهای بزرگ و وسیع که برای آینده مهم هستند تهیه کنید دوم حالا این هدف‌های عمده، پروژه ها یا کارها را اولویت بندی کنید. کدام یک از همه مهمترند؟ ابتدا چه کاری باید صورت داد؟ نوبت دوم به کدام کار می‌رسد و غیره و غیره. با در نظر گرفتن هدف در ذهن شروع کنید. و از شروع به انتها برسید روی کاغذ فکر کنید همیشه از روی فهرست کار کنید از کار بیشتری که میتوانید انجام بدهید و کارایی بیشتری که به دست می آورید شگفت زده می شوید. خواهید دید که خوردن قرباغه برایتان تا چه اندازه راحت تر می شود. قائده 80 به 20 را در همه کارها رعایت کنید. همیشه به اندازه کافی وقت داریم. کافی است از آن به درستی استفاده کنیم. یوهان ولفگانگ فون گوتته. قاعده 80 به 20 یکی از مفیدترین مفاهیم مدیریت بر زمان و زندگی است. به این اصل پارتو هم می‌گویند. ویلفردو پارتو، مبتکر این اصل، یک اقتصاددان ایتالیایی است که برای اولین بار در سال 1895 این قاعده را بیان کرد. پارتو متوجه شد که اشخاص در جامعه او به دو گروه تقسیم می‌شوند. گروه محدود نخست که 20 درصد جمعیت را تشکیل می دهند به لحاظ پول و نفوذ در شرایط مطلوب قرار دارند. بقیه افراد که 80 درصد جمعیت را شکل می دهند در پایین هرم جامعه قرار دارند. پارتو بعداً به این نتیجه رسید که تمام فعالیت اقتصادی هم از اصل پارتو تبعیت می کند. برای مثال به استناد این قاعده 20 درصد از فعالیت های شما سببساز 80 درصد از نتایج شما میشوند. 20 درصد از مشتریان شما 80 درصد فروش شما را به خود اختصاص میدهند. 20 درصد از محصولات یا خدمات شما 80 درصد سود شما را شکل می دهند. 20 درصد از کارهای شما 80 درصد ارزش کاری را که انجام می دهید رقم میزنند و غیره و غیره این بدان معنی است که اگر فهرستی از ده قلم کاری که باید انجام دهید دارید، دو مورد از این اقلام ارزششان به اندازه هشت مورد بعدی است. تعداد, تعداد کارها در برابر, برابر کارهای کارها مهم. مهم،, مهم،, مهم در اینجا به کشف مهمی می رسیم. هر یک از این کارهای دهگانه ممکن است به اندازه یکدیگر وقت بگیرند. اما یک یا دو مورد از کارها پنج یا ده برابر ارزش هر یک از موارد دیگر را شکل می دهند. اغلب اوقات، یک قلم از اقلام مندرج در فهرست شما می تواند از نه قلم دیگر ارزشمندتر باشد. این کار همان ای است که باید آن را اول بخورید. آیا می توانید حدس بزنید که اشخاص معمولا کدام کار را به بعد موکل می کنند؟ متاسفانه باید بگوییم که اشخاص اغلب انجام دادن ده تا 20 درصد کارهای در اولویت اول را که اهمیت بیشتری دارند به تعویق می و بعد خود را با آن 80 درصد بعدی سرگرم می کنند که از اهمیت بسیار کمتری برخوردارند و به نتایج کار آنقدرها اضافه نمی کنند. به جای دستاوردها روی ها متمرکز شدید شما اغلب به کسانی برمیخورید که در تمام مدت روز کار می کنند، اما به نظر میرسد کار کمی صورت میدهند. علتش تقریبا همیشه این است که آنها کارهای کمتر ارزشمند را انجام می دند. اما انجام دادن یک یا دو کار اصلی را که اگر به درستی و به سرعت انجام شوند، می تغییری در شغل و شرکتشان به وجود آورند به بعد موکول مینمایند. ارزشمندترین کاری که همه روزه میتوانید انجام بدهید اغلب سخت ترین و پیچیدهترین کارها هستند اما پاداش و اجر انجام دادن تو ام با کارایی این کارها میتواند بسیار زیاد باشد از این رو نباید در حالی که هنوز آن 20 درصد بالای کارها را انجام نداده اید، به سر وقت آن 80 درصد بروید قبل از اینکه کارتان را شروع کنید همیشه از خود بپرسید آیا این کار در زمره آن 20 درصد است یا در شمار 80 درصد؟ قاعده مهم در برابر وسوسی انجام دادن کارهای کوچک در ابتدای روز خودداری نمایید. به خاطر داشته باشید هر کاری را که برای انجام دادن انتخاب کنید و این کار را بارها و بارها انجام بدهید تبدیل به عادتی می شود که ترک کردن آن دشوار است. اگر روزتان را با انجام دادن کارهای کم ارزش شروع کنید، عادت می کنید که همیشه کارهای کم ارزش را اول انجام بدهید. این عادتی نیست که بخواهید در خود ایجاد کنید و به آن ادامه بدهید. دشوارترین بخش هر کار مهم دست به کار شدن روی آن است. وقتی شما به راستی روی کار ارزشمندی شروع به کار کردید، انگیزهی پیدا می کنید که ادامه بدهید. بخشی از ذهن شما خواهان درگیر شدن با کارهای مهمی است که به واقع میتوانند تأثیر گذار باشند. کار شما باید این باشد که پیوسته این بخش از ذهن خود را تقویت و تقضیه کنید. به خودتان انگیزه بدهید. همین که درباره شروع و پایان یک وظیفه مهم فکر می کنید، به شما انگیزه می دهد و کمکتان می کند تا بر امروز و فردا کردن غلبه کنید. واقعیت این است که زمان لازم برای تکمیل کردن یک کار مهم به همان اندازه زمانی زمانیست که صرف انجام دادن کارهای غیر مهم می کنید. تفاوتش در این است که به خاطر تکمیل کردن یک کار ارزشمند و مهم احساس غرور و رضایت خاطر فراوان می کنید. اما وقتی کار نچندان ارزشمندی را انجام می دهید و با این حال از همان مقدار انرژی و زمان استفاده می کنید یا رضایت خاطری نصیب شما نمی شود و یا اگر بشود مقدارش بسیار نازل است. مدیریت زمان در اصل همان مدیریت بر زندگی است، همان مدیریت شخصی است. کنترل کردن، ترتیب و ترادف حوادث است. مدیریت زمان کنترل داشتن بر کاری است که در مرحله بعد می انجام بدهید و شما همیشه مختارید کاری را که در مرحله بعدی میخواهید انجام دهید انتخاب کنید. توانایی شما در انتخاب میان کار ضروری و غیر ضروری آمل مهم تعیین کننده موفقیت شما در کار و زندگی است. اشخاص مؤثر و کارآمد خودشان را عادت می‌دهند تا با بهترین کاری که پیش رو دارند شروع کنند. در نتیجه در مقایسه با متوسط سایرین، کار به مراتب بیشتری صورت می‌دهند و در نتیجه به مراتب شادمانتر هستند. شما هم باید به همین طریق رفتار کنید. را یک. همین امروز فهرسی از هدفها، فعالیتها، پروژهها و مسئولیتهای مهم زندهیتان تهیه کنید کدام یک از آنها در شماره 10 یا 20 درصد کارهای اصلی شما قرار دارند و می توانند 80 یا 90 درصد نتایج شما را رقم بزنند دو، از همین امروز مصمم شوید که وقت بیشتر و باز هم بیشتری را صرف کارهایی بکنید که بتوانند زندگی و کارتان را متحول سازند. روی فعالیتهایی که اهمیت کمتری دارند، وقت کمتری صرف کنید. نتایج را در نظر بگیرید هر کس به همان تناسب که نیرویش را مصروف کار به خصوصی بکند به عظمت میرسد و موفق میشود اوریسون سوات مردن نشانه اندیشمند برتر در توانایی اوست که بتواند به درستی نتایج و پیامدهای انجام دادن یا ندادن کاری را پیش بینی کند نتایج بلقوه هر کار و فعالیتی مهمترین تعیین کننده اهمیت آن کار برای شما و یا برای شرکت شماست این طرز ارزیابی اهمیت کار نشان می دهد که غرباغی بعدی شما کدام است دکتر ادوارد بنفیلد استاد دانشگاه هاروارد با بیش از پنجاه سال پژوهش به این نتیجه رسید که دید بلند مدت دقیق ترین عامل تعیین کننده ی حرکت اقتصادی و اجتماعی روبه رشد در آمریکا است دید بلند مدت بیش از سابقه ی خانوادگی تحصیلات نژاد هوش ارتباطها و یا هر تک عامل دیگری موفقیت شما در زندگی و کارتان را رقم می‌زند نگرش شما در قبال زمان افق زمانیتان تأثیر چشمگیری بر رفتار و گزینه‌های شما دارد اشخاصی که دید بلند مدت دارند همیشه درباره زمان و فعالیت‌های خود بهتر از کسانی که به آینده کمتر نظر دارند تصمیم می‌گیرند قاعده مهم اندیشه بلندمدت، مدت تصمیمگیری کوتاه مدت را بهبود میبخشد. اشخاص موفق درباره آینده دید بهتری دارند. آنها به پنج، ده یا بیست سال آینده نظر دارند آنها در زمان حال انتخابها و رفتارهایشان را ارزیابی می‌کنند تا مطمئن شوند با آیندهایی که میخواهند به آن برسند، سازگار و همسو هستند. درباره زمان تصمیمات بهتری بگیرید. در کارتان اگر بدانید در بلند مدت برای شما چیست که مطلوب است، به سهولت بسیار بیشتری درباره آو در, در کوتاه مدت تصمیم گیری می‌کنید. طبق تعریف، کاری مهم است که پیامدهای های بلندمدت بلند مدت آن مهم باشد. کاری که مهم نیست، پیامدهای های بلندمدت بلند مدت آن هم مهم نیست. قبل از اینکه در زمینه دست بکار شوید، باید همیشه از خود بپرسید نتایج بلغوی انجام دادن یا ندادن این کار کدام است. قاعده مهم نیات آتی روی اعمال فعلی شما تأثیر می‌گذارد. هر هرچه واضحتر بدانید که در آینده می به کجا برسید این واضح بینی روی کاری که در لحظه انجام می دهید تأثیر بیشتری بر جای می‌گذارد. با داشتن یک پنداری روشن بلند مدت بهتر می فعالیتی را در زمان حال ارزیابی کنید و از همخواان بودن آن با نتایجی که میخواهید به دست آورید مطمئن گردید. به بلند مدت فکر کنید. موفقها کسانی هستند که رضایت خاطر خود را به تعویق می و در کوتاه مدت از خودگذشتگی نشان میدهند تا در بلند مدت به نتایج بسیار بهتری برسند. اشخاص ناموفق از سوی دیگر بیشتر به خوشنودی های مدت فکر می کنند و به رضایت های آنی می و به آینده توجه چندانی ندارند. دنیس ویلتی میگوید بازندگان با توجه کردن به آنچه تنش را تخفیف می دهد می از حراس خود بگریزند. برندگان تحت تأثیر دستیابی به هدف انگیزه پیدا می کنند. برای مثال، زود بر سر کار خود رفتن، مطالعه منظم در زمینه کار، شرکت در دوره‌های آموزش برای افزودن بر مهارت‌ها و توجه داشتن به کارهای پرارزش، جملگی تأثیر بسیار مثبتی روی آینده شما می‌گذارند. از سوی دیگر، رسیدن در آخرین لحظه به محل کار خواندن روزنامه، نوشیدن قهوه و خوشبش کردن و گپ زدن با همکاران، حتی اگر در کوتاه مدت شادی آفرین و لذت بخش به نظر برسد، بدون تردید شما را از پیشرفت کردن محروم می کند. سبب می شود تا به هدف نرسید و در بلند مدت با ناراحتی روبرو گردید اگر کار و فعالیتی نتایج بلقوهی مثبت و عالی داشته باشد، آن را در اولویت قرار بدهید و بلافاصله به آن بپردازید. به همین شکل، در صورتی که انجام ندادن فوری آن نتایج به شدت منفی داشته باشد، آن هم باید بلافاصله انجام گیرد. گرباقی شما هرچه باشد ابتدا آن را ببلعید. انگیزه به محرک احتیاج دارد. هرچه تأثیر عمل یا رفتاری تأثیر بالقوه بیشتری بر زندگی شما داشته باشد، به راحتی بیشتری می توانید به مسامه کاری پایان بدهید و آن را به سرعت به انجام برسانید. همیشه به کارهایی فکر کنید و به فعالیت هایی بپردازید که بتوانند تفاوت قابل ملاحظهی بر شرکت و آینده شما داشته باشند. زمان به هر صورت می گذرد. تنها سوالی که مطرح است این است که می خواهید این زمان را چگونه بگذرانید؟ می خواهید در پایان هفته و ماه به کجا برسید؟ و اینکه به کجا برسید بستگی فراوان به این دارد که به نتایج اقدامات خود در کوتاه مدت چگونه فکر می کنید؟ اندیشیدن پیوسته به پیامدهای انتخابها، تصمیمات و رفتارهایتان یکی از بهترین راه تعیین اولویت‌های راستین در کار و زندگی شخصی است. از قانون کارایی جبری استفاده کنید. قانون کارایی جبری می گوید، هرگز برای انجام دادن همه کارها وقت کافی وجود ندارد. اما برای انجام دادن مهمترین کارها همیشه وقت کافی هست، به عبارت دیگر نمی توانید همه قرباقه های داخل برکه را بخورید. اما می توانید بزرگترین و زشتترین قورباغه را بخورید. و این کم برای حال حاضر کافی است. وقتی زمان کم میآورید آورید و می دانید که پیامدهای انجام ندادن یک کار مهم و کلیدی می تواند کاملا جدی باشد، همیشه فرصتی پیدا می کنید که آن کار را انجام بدهید. زودتر کارتان را شروع می کنید، دیرتر محل کارتان را ترک می کنید و سعی می نمایید که کارتان را به انجام برسانید و با مشکلات و ناخوشایندی های ناشی از انجام ندادن کار روبرو نگردید. قاعده مهم برای انجام دادن همه ی کارها هرگز وقت کافی وجود ندارد. در دنیای امروز تجار به طور متوسط به خصوص گروه مدیران در حد 110 تا 130 درصد ظرفیت کار می کنند و کارها روی هم انباشت می شوند. همه ما همیشه انبوهی از مطالب خواندنی داریم که هنوز آنها را مطالعه نکرده ایم. در جریان یک بررسی که اخیراً صورت گرفت، مدیران به طور متوسط 300 تا 400 ساعت عقب افتادگی در مطالب خواندنی دارند. معنای این حرف این است که هرگز نمیتوانید همه مطالب مرد نیاز را بخوانید. فکر این خیال را از سر بیرون کنید. تنها میتوانید به این امیدوار باشید که مهمترین مسئولیتهای خود را انجام بدهید. بقیه کارها باید منتظر باقی بمانند. زرب العجل ها بهانه هستند. خیلی ها میگویند زیر فشار ضرب العجل ها بهتر کار میکنند. متاسفانه سالها بررسی نشان میدهد که به ندرت ممکن است این اتفاق بیفتد. زیر فشار زربال که اغلب ناشی از امروز و فردا کردن و دفع الوقت نمودن است، اشخاص با استرس روبرو می گردند. بیشتر اشتباه می کنند و مجبور می شوند در بسیاری از مواقع دوباره کاری بکنند. اغلب کار کردن در شرایط تنگی وقت زیانهای فراوان تولید می کند. در بسیاری از مواقع، کاری که تحت فشار زمان انجام شود، وقت بیشتری می گیرد. زیرا در بسیاری از مواقع دوباره کاری تحقق پیدا می کند. به مراتب بهتر است که زمان خود را از قبل به دقت برنامه ریزی کنید و زمانی را نیز برای بروز مشکلات و حوادث غیر مترقبه در نظر بگیرید. به هر زمانی که برای انجام دادن کاری در نظر می گیرید 20 درصد اضافه کنید تا در زمان تعیین شده بتوانید آن کار را انجام بدهید از آرامش خاطری که پیدا می کنید و از بهتر انجام دادن کارهایتان شگفت زده می شوید برای رسیدن به حد اکثر بهره وری برای انجام دادن کارهای مهم طبق برنامه تعیین شده سه سوال وجود دارد که می به طور منظم از خود بپرسید اولین سوال این است پرارزشترین ارزشترین فعالیت من کدام است به عبارت دیگر بزرگترین هایی که باید بخورید تا بیشترین تأثیر مثبت را در سازمان، خانواده و خودتان بر جای بگذارید کدامند؟ این یکی از مهمترین است که میتوانید از خود بپرسید و به آن جواب بدهید. پر ارزشترین فعالیت شما کدام است؟ این فعالیت را برای خود روشن کنید. بعد این سوال را از رئیستان، همکارتان و کارکنانتان بپرسید. از دوستان و افراد خانواده خود سوال کنید. باید دقیقاً بدانید ارزشمندترین کاری که صورت میدهید کدام است؟ دومین سوالی که میتوانید پیوسته از خود بپرسید این است کدام کار است که من و تنها من می توانم انجام بدهم که اگر به درستی انجام شود تغییری در زندگیم ایجاد ایجاد میکند این سوالی است که مرشد بزرگ مدیریت پیتر دراکر مطرح میسازد این یکی از مهمترین سوالات است که اثر بخشی شخصی را به همراه می آورد. کدام کار است که شما و تنها شما میتوانید انجام بدهید تا تغییری اساسی ایجاد کنید این کاری است که تنها شما میتوانید انجام بدهید و اگر شما آن را انجام ندهید شخص دیگری آن را انجام نخواهد داد اما اگر شما این کار را انجام بدهید و خوب هم انجام بدهید میتواند تغییری شگرف در زندگی و حرفه شما ایجاد کند این کدام قربا است که باید آن را بخورید در تمامی ساعات روز می توانید این را از خود سوال کنید و به آن جواب مشخص بدهید لازم است که از جواب خود مطمئن باشید و بعد قبل از انجام دادن هر کار دیگر این کار را انجام بدهید سومین سوالی که می توانید بپرسید این است در حال حاضر ارزشمندترین استفاده از اوقاتم کدام است به عبارت دیگر در این لحظه بزرگترین قورباغه من کدام است این سوال مهم مدیریت بر زمان است پاسخ درست دادن به این پرسش کلید غلبه بر دفع الوقت کردن و مصامحه کاری و تبدیل شدن به یک انسان کاملا مولد است در هر ساعتی از هر روز زندگی یک کار وجود دارد که انجام دادنش از سایر کارها ارزشمندتر است وظیفه شما این است که مرتب این سوال را از خود بپرسید و پیوسته به آن جواب بدهید. همیشه کارهایی از همه مهمتر را انجام بدهید و کارهایی از درجه دوم اهمیت را ابدا انجام ندهید. به قول گوته، کارهایی که از همه مهمترند، نباید تحت شعای کارهایی که کمترین اهمیت را دارند، قرار بگیرند. هرچه جوابهایتان به این سه سؤال دقیق تر باشد، راحت تر می توانید را مشخص کنید راحت تر می امروز و فردا کردن را کنار بگذارید و به کارهایی بپردازید که از سایر کارها ارزشمندتر هستند دوربایر را بخورید یک، فهرست کارها، فعالیت‌ها و پروژه‌های خود را به طور منظم مرور کن. پیوسته از خود بپرسید کدام پروژه یا فعالیت را اگر به طرز عالی و به موقع انجام دهم ده بیشترین تأثیر مثبت را بر زندگی شخصی من خواهد گذاشت. دو، مهمترین کاری را که در هر ساعت از روز می‌توانید انجام دهید مشخص نمایید. بعد از آن به خود نظمی بدهید که از زمان خود مطلوب ترین استفاده را بکنید ارزشمندترین کاری که در این لحظه میتوانید بکنید کدام هر هست. کاری که بتوانیش ترین کمک را به شما بکند آن را هدف خود قرار دهید برنامهای بریزید تا به آن برسید و بلا فاصله به سراغ برنامهتان بروید و دست به کار شوید کلمات ناب را به خاطر بیاورید. شروع کنید تا ذهنتان گرم شود. ادامه دهید تا کار به انجام برسد. تنبلی خلاق را تجربه کنید. همه برای انجام دادن کارهای مهم وقتی را اختصاص دهید درباره باره کارهایی که می انجام بدهید از قبل برنامه ریزی کنید صبح اول وقت چند کار کوچک اما خیلی مهم را انجام بدهید و بعد از آن مستقیما به سر وقت کارهای مهم بروید و تا زمانی که آنها را تمام نکرده اید آرام نگیرید بوردروم تنبلی یا مسامه کاری خلاق یکی از موثرترین روش‌های روش های شخصی است که میتواند زندگی شما را تغییر بدهد. واقعیت این است که نمیتوانید همه کارهایتان را به اطمینان برسانید. از این رو مجبور میشوید انجام دادن بعضی از کارها را به بعد مکل کنید. از خوردن قرباهای کوچکتر و کمتر زشتر خودداری کنید. بزرگترین و زشترین غرباغی را قبل از هر کار دیگری بخورید. همه دفع الوقت می و کارهایی را تعویق می تفاوت میان عملکرد مطلوب و نامطلوب، تفاوت میان موفقها و ناموفقها بستگی به این دارد که انجام دادن چه کاری به بعد موکول می از آنجایی که به هر صورت باید انجام دادن بعضی از کارها را به بعد موکول کنید از همین امروز تصمیم بگیرید کارهای کم ارزشتر را به بعد موکول نمایید از خوردن بچه ها خودداری کنید و به کارهای مهم بپردازید ها در برابر کم اهمیت ها. در اینجا به نکته مهمی میرسیم. برای تعیین اولویت‌های مهم و کلیدی باید کارهای نازل را انجام ندهید و یا انجام دادن آنها را به بعد موکول نمایید. قاعده مهم هرقدر کارهای بی اهمیت و نازل جا کمتر انجام بدهید، به همان اندازه اوقات و زندگی خود را تحت کنترل خود در می آورید. یکی از قدرتمندترین کلمات در مدیریت زمان گفتن کلمه نه می باشد، معدبانه نه بگویید. سریح و دقیق نبگوید تا جای ابهامی باقی نماند. جواب نه دادن را همه روزه تمرین کنید. به آنچه برای زمان و زندگی شما ارزش زیادی ندارد، جواب نه بدهید. این نه را خیلی زود و به صورت مکرر تکرار کنید. واقعیت این است که فرصتی برای تلف کردن وقت وجود ندارد. برای اینکه بتوانید کار جدیدی صورت دهید باید یا کاری مربوط به گذشته را تمام کنید یا انجام دادن آن را متوقف سازید. به درون آمدن مستلزم از در بیرون رفتن است. انتخاب کردن به معنای زمین گذاشتن کارهای دیگر است. مصاحه کردن خلاق یعنی آنکه فکورانه و به ام تصمیم بگیرید چه کار است که در حال حاضر میخواهید آنها را کنار بگذارید. مشروط بر اینکه کاری کنار گذاشتنی باشد. به بعد موکول کردن عمدی اغلب اشخاص به طور ناخودداگاه کارهایشان را به بعد موکول می کنند. آنها بدون اینکه دربار فکر کنند مصاحه می کنند. در نتیجه انجام دادن کارهای بزرگ و مهم را به بعد موقول می کنند. کارهایی را به عقب میاندازند که می تواند در بلند مدت در زندگی آنها ایفاگر نقش مهمی باشد. باید به هر قیمت که شده از این گرایش حذر کنید. کار شما باید این باشد که به عمد انجام دادن بعضی از کارها را که بی اهمیت هستند به عقب بیاندازید تا فرصتی برای انجام دادن کارهای مهمتر باقی بماند. پیوسته وظایف و مسئولیت‌های خود را مرور کنید. کارهای وقتگیر بدون اهمیت را شناسایی کنید. این وظیفه‌ای ادامهدار است که هرگز تمام نمی‌شود. برنامه‌های غیرکاری خود را بررسی کنید و ببینید کدام یک از آنها مهم نیستند. از زمان تماشای برنامه‌های تلویزیونی کم کنید و از فرصتی که به دست می‌آورید برای پرداختن و صرف وقت کردن با خانواده خود استفاده نمایید. بیشتر کتاب بخوانید، بیشتر ورزش کنید، کاری کنید که زندگی شما را بهتر کند. به فعالیت‌های کاری خود نگاه کنید. ببینید چه کارهایی است که می‌توانید انجام ندهید. چه کارهایی است که می‌توانید انجام دادن آن را به بعد موکول کنید. از امروز به عقب انداختن خلاق کارها را شروع کنید. هر زمانی که امکانش وجود دارد به کارهای بی‌اهمیت جواب نه بدهید. این تصمیم گیری به تنهایی می تواند زندگی شما را تغییر بدهد گرباغه را بخورید جه. جه. اندیشه از مبدع صفر را در همه زمینه های زندگی خود لحاظ کنید پیوسته از خود سآل کنید اگر این کار را نمی کردم، با توجه به علم و اطلاعی که هم اکنون دارم آیا امروز آن کار را انجام می‌دادم؟ اگر دیدید با توجه به علم و اطلاع امروز کاری را در گذشته انجام نمی‌دادید، این کار را از برنامه های خود حذف کنید دو کارهای شغلی و فعالیت‌های شخصی خود را با توجه به موقعیتی که امروز دارید ارزیابی کنید اگر این کاری است که دوباره امروز آن را شروع نمی‌کردید بهتر این است که انجام دادن آن را به بعد مکول نمایید پیوسته روش الف بارا تمرین کنید. نخستین قانون موفقیت تمرکز کردن است. همه انرژی خود را مصروف یک نقطه کنید. مستقیما به سر وقت این نقطه بروید. نه به راست نگاه کنید و نه به چپ. ویلیام متیوس هرچه قبل از آنکه دست به کار شوید بیشتر به برنامه‌ریزی و تعیین اولویت‌ها بپردازید، کار بیشتری صورت می‌دهید و وقتی شروع کردید، آن را سریع‌تر انجام می‌دهید. هرچه هرچه کار برای شما مهمتر و ارزشمندتر باشد، بیشتر انگیزه خواهید داشت تا بر مسامحه و دفع الوقت کردن خط پایان بکشید و دست به کار شوید. روش الف با روشی قدرتمند برای تعیین اولویت هاست که می توانید از آن همه روزه استفاده کنید این روش به قدری ساده و موثر است که به تنهایی می تواند شما را به یکی از کارآمدترین اشخاص در حرفه خود تبدیل نماید روی کاغذ فکر کنید قدرت این روش را باید در سادگی آن جستجو نمود اجازه بدهید طرز کار این روش را توضیح بدم ابتدا فهرست تمام کارهایی را که باید در روز بعد انجام بدهید تهیه می کنید. حالا قبل از اینکه کارتان را شروع کنید در برابر هر یک از این کارها حروف علف، ب، جیم و دال را بنویسید. کاری که با حرف علف مشخص شده مهمترین کار است. این کاری است که اگر آن را انجام ندهید با پیامدهای جدی روبرو گردید. این مورد می تواند ملاقات با یک مشتری مهم و یا تحییه گزارشی برای رئیستان باشد که آن را برای شرکت در حیعت مدیره نیاز دارد این اقلام گرباغاهای زندگی شما هستند اگر احساس کردید چند مورد از کارهای شما باید با حرف الف مشخص شوند، آنها را به شکل الف یک، الف دو، الف سه و غیر ردیف بندی کنید مورد الف یک بزرگترین؟ و زیشترین ها است بهتر است در برابر باید موردی که با حرف ب مشخص شده کاریست که باید و یا بهتر است آن را انجام بدهید اما نتایج و پیامدهای نچندان سنگینی دارد اینها در واقع نوزاد قرباقه های زندگی کاری شما هستند این بدان معناست که اگر این کار را انجام ندهید، ممکن است کسی را ناراحت و یا ناخشنود بکنید. اما این هرگز به اندازه مواردی که با حرف الف علامت گذاری شدهاند نیست. جواب دادن به یک پیام تلفنی و یا مراجعه به کامپیوتر و مرور نامه دریافتی میتواند وظیفه از نوع ب باشد. نکته مهم در این است، تا زمانی که کاری با علامت الف باقی مانده، نباید به سروقت کار با علامت بی بروید. وقتی یک قرباقی بزرگ پیش رویتان نشسته، نباید حواستان را به بچه قرباقه ها بدهید. کار مشخص شده با حرف جیم، کاریست که انجام دادنش خوب است، اما اگر این کار را انجام ندهید، پیامدی هم متوجه شما نخواهد شد. از جمله کارهای در این ردیف میتوان به تلفن کردن به یک دوست، صرف قهوه یا نهار با همکار و یا انجام دادن یک کار شخصی در زمان کار باشد این فعالیت هیچ تأثیری بر زندگی شغلی شما ندارد کاری که با حرف دال مشخص می شود آن است که می توان انجام دادنش را به دیگران تفیز کرد مهم این است هر کاری را که بتوان به شخص دیگری تفیز کرد باید این کار را کرد اینگونه فرصت بیشتری پیدا می کنید که به کارهای ردیف علف بپردازید. کار مشخص شده با حرف ه، است که می توانید آن را به کلی از برنامه خود حذف کنید. تفاوتی هم ایجاد نمی شود. این کار ممکن است زمانی از اهمیت برخوردار بوده اما حالا فاقد اهمیت است. اینها معمولا معمولاً کارهایی هستند که آنها را از روی عادت انجام می دهید و یا از انجام دادن آنها لذت می برید. اما هر دقیقهی که روی کاری با این ماهیت صرف می کنید کار مهم دیگری را که می تواند تحولی در زندگیتان به وجود آورد انجام نمی دهید پس از آن که از روش علف با برای کارتان استفاده می کنید، کاملاً سازمان یافته می شوید و آماده می گردید تا کارهای مهمتر را با سرعت بیشتر انجام بدهید. بلا, بلا فاصله, فاصله دست, دست بکار شوید برای اینکه این روش علف با روی شما تاثیر بگذارد، باید خودتان را عادت دهید که بلا فاصله با موردی که با حرف علف یک مشخص گردیده است شروع کنید. از نیروی اراده خود استفاده کنید و بر این نظم باقی بمانید همه گرباقه را بخورید و تا کارتان را به اتمام نرسانده اید متوقف نشوید توانایی شما در اندیشیدن به فهرست و مشخص نمودن وظیفه یک شما را در سطح به مراتب بالاتری می‌رساند و بر عزت نفس، حرمت نفس و قرور شخصی شما می افساید. وقتی عادت می کنید روی مهمترین کارتان یعنی کاری که با الف یک مشخص گردیده متمرکز شوید، وقتی عادت می کنید که قرباغه تان را بخورید، در مقایسه با آن دو سه نفری که در پیرامون شما قرار دارند کار بیشتری صورت می دهید. مورباغه را بخورید بخال یک همین حالا فهرست کارهای در دست اجرا را مطالعه کنید و هر یک از موارد کاری را با حروف علف با اولویت بندی نمایید کار مشخص شده با علف یک را انتخاب کنید و فاصله روی آن دست بکار شد خودتان را عادت بدهید تا زمانی که این کار را تمام نکرده اید کار دیگری صورت ندهید دو، روش علف بارا همه روزه و در مورد هر یک از فهرست های مرتبط با پروژه های خود لحاظ کنید این کار را برای ماه آینده و قبل از شروع کردن به کار انجام بدهید این گونه عادت می کنید با کاری که بیشترین اولویت را دارد شروع کنید این باشید که آینده تضمین شده ای خواهید داشت. به شاخصه های کلیدی بیاندیشید. وقتی همه منابع ذهنی و جسمانی متمرکز بشوند، قدرت انسان برای حل مسائل به طور حیرت انگیزی چند برابر می شود. چرا به من حقوق می دهند؟ این یکی از مهمترین پرسش است که در طول عمر حرفی خود بارها و بارها آن را سؤال می کنیم جالب اینجاست که اغلب مردم دقیقا نمی دانند یا مطمئن نیستند که چرا به آنها حقوق می دهند؟ اما اگر کاملا بدانید که چرا اسم شما در فهرست حقوق بگیران است و برای تحقق چه هدفهایی استخدام شده اید دشوار است که در بهترین حد خود ظاهر شوید و بیشتر حقوق بگیرید و سریعتر ارتقاء درجه پیدا کنید در ساده ترین شکل خود جواب این است که شما برای آن استخدام شده اید که به نتایج خاصی دست پیدا کنید حقوق و دستمزد پرداخت به خاطر کاریست که می توانید آن را با کار دیگران ترکیب کنید و محصول یا خدمتی را فراهم آورید که مشتریان بخواهند و مایل باشند برای خرید آن پولی بپردازند. اهداف هر شغل را می توان به پنج تا هفت بخش تقسیم کرد و به ندرت اتفاق میافتد افتد که بیش از این باشد. اینها نتایجی هستند که باید به آنها دست پیدا کنید تا بیشترین خدمت را به سازمان خود ارائه داده باشید. شاخصه های کلیدی چیزهایی هستند که شما در قبال آنها مسئولیت کامل دارید. اگر شما این کار را انجام ندهید، شخص دیگری این کار را نخواهد کرد. شاخصه یک کلیدی است که تحت کنترل شماست. بازدهی تولید می کند که برای انجام دادن کارهای دیگران حکم نهاده پیدا می کند. شاخصه های کلیدی مشابه عملکردهای حیاتی بدن انسان هستند که از جمله آنها میتوان به فشار خون، زربان قلب، میزان تنفس و فعالیت امواج مغزی اشاره نمود. نبوده هر یک از این عملکردهای مهم و حیاتی منجر به مرگ میشود. به همین شکل اگر نتوانید به نتایج کلیدی مورد نظر در کارتان دست پیدا کنید ممکن است به کار خود در سازمان پایان بدهید. هفت شاخصه در مدیریت و فروش برای مثال، حوزه های مهم و کلیدی در مدیریت عبارتند از برنامه ریزی، دادن، استخدام نیروی انسانی، تفیض اختیار، نظارت و سرپرستی، اندازهگیری و دهی. اینها حوزه هایی هستند که در آن مدیر باید به نتایج مورد نظر برسد تا به وظایف و مسئولیت های خود دست یافته باشد. نقطه ضعف در هر یک از این زمینها می تواند به شکست و ناکامی مدیریت منتهی شود. شاخصه های کلیدی در کار فروش، پیدا کردن مشتری، ایجاد ارتباط مؤثر و اعتماد، شناسایی نیازها، ارائه کردن مطلوب جواب دادن به اعتراضات، قطعی کردن فروش و دستیابی به فروش مجدد و معرفی شدن به سایر مشتریان از سوی مشتری قبلی است. عملکرد ضعیف در هر یک از این مهارت‌های کلیدی منجر به کاهش فروش و گاه شکست یک فروشنده می شود. هر کاری که می‌کنید نیازمند مهارت‌های ویژه‌ای هستند تا آن کار را به طرز عالی انجام بدهید. اما اینها پیوسته در حال تغییر هستند. شما از صلاحیت اولیه برخوردارید که میتوانید کارتان را به خوبی انجام بدهید. اما بعضی از شاخصه مهم برای شما نقش کلیدی می کنند و میتوانند موفقیت یا شکست شما را رقم بزنند. اینها چه هستند؟ نقش مهم شفافیت و روشنی برای اینکه عملکرد مطلوب داشته باشید، باید بدانید که قرار است به چه نتایجی برسید. در این خصوص با رئیس خود صحبت کنید. فهرستی از هدفهایی که از شما انتظار برآورده شدنشان را دارند، تهیه کنید. دقت کنید که افراد بالادست، همتراز و افرادی که تحت نظر شما کار می‌کنند، با این اهداف کلیدی موافق و هماهنگ باشند. برای مثال برای کسی که به عنوان فروشنده کار می کند، پیدا کردن مشتریان جدید و رسیدن به سطح مورد نظر فروش، یکی از شاخصهای عمده تعین کننده موفقیت اوست. این فعالیت برای فرایند فروش نقش تعین کننده دارد. موفق شدن در فروش به مشتری شاخص امده دیگری است. وقتی فروش انجام می‌شود، روی فعالیت دیگران تأثیر می‌گذارد تا کالا یا خدمت مورد نظر را تولید و تحویل نمایید. برای صاحب شرکت یا برای مدیران رد بالای اجرایی، مذاکره درباره دریافت وام از بانک فعالیت عمده و تعیین کننده است. استخدام افراد واجد و شرایط، تفیض اختیار کردن مؤثر هم از جمله ها و شاخص‌های مهم است. برای یک منشی و یا مسئول پذیرش تایپ کردن نامه یا جواب دادن به تلفن و ارتباط دادن سریع و موثر شاخصه مهم کاره است. کار اوست توانایی کارکنان در انجام دادن سریع و مطلوب کارها میزان حقوق و ارتقاء درجه آنها را مشخص می‌سازد به خودتان امتیاز بدهید. وقتی حوزه‌های کلیدی کارتان را مشخص کردید، باید به خود بر اساس یک تا ده در هر شاخصه امتیاز بدهید. در کجا قوی هستید؟ در کدام حوزه نقطه ضعف دارید؟ در کدام حوزه به نتایج عالی میرسید و در کدام حوزه در سطح نازلتر از انتظار عمل می‌کنید؟ قاعده مهم. ضعیف‌ترین شاخصه عملکرد شما نقطه اوج استفاده از مهارت‌ها و قابلیت‌های شما را مشخص می‌سازد. به عبارت دیگر در هفت شاخصه ممکن است در شش حوزه عالی باشید اما یکی از شاخصه‌های عملکرد شما ضعیف باشد. عملکرد ضعیف شما در این حوزه تعیین‌کننده میزان موفقیت شما در حوزه‌های دیگر است. این نقطه ضعف یک عامل بازدارنده است و میتواند به طور دائم تولید ناراحتی، دلسردی و استکاک کند. برای مثال یکی از وظایف عمده و مهم هر مدیر تفیض اختیار کردن است. این نکته مهمی است که به مدیر امکان مدیریت میدهد تا توسط دیگران به هدفهای مطلوب سازمان برسد. مدیری که نتواند به خوبی تفویض اختیار کند نمیتواند از همه مهارت های خود حداکثر استفاده را بکند. مهارت ضعیف در تفویض اختیار به تنهایی میتواند اسباب شکست و ناکامی در کار شود. عملکرد ضعیف تولید تنبلی می یکی از دلایل عمده مسامحه کاری و به تأخیر افتادن کارها این است که کارکنان در حوزه‌هایی که در گذشته در آن ضعیف ظاهر شدهاند دست به کار نمیشوند و از انجام دادن فعالیت هذر می کنند. به جای اینکه هدفی را مشخص کنند و برنامه‌ای بریزند تا در یک حوزه خاص در شرایط بهتری قرار بگیرند، اغلب اشخاص به کلی از این حوزه دوری می‌گزینند که این بر وخامت شرایط می‌افزاید. عکس این مطلب این است که هرچه در یک حوزه مهارت بیشتری کسب کنید، هرچه انگیزه بیشتری پیدا می کنید تا آن کار را بهتر صورت دهید از میزان مسامهه و دفع الوقت کردن شما کاسته می شود تا با عزم راسختری کارتان را انجام دهید. واقعیت این است که هر کس هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد. از توجیه کردن و یا دفاع از نقاط ضعف خود خودداری نمایید. به جای آن، این حوزه ها را شناسایی کنید، هدفی را مشخص سازید و برنامهای بریزید که در این زمینه ها به خوبی ظاهر شوید. خوب فکر کنید. ممکن است تنها در یکی از حوزه های کلیدی کارتان نقص داشته باشید و تنها به همین سبب نتوانید در سطح عالی ظاهر شوید. سؤال مهم در اینجا به یکی از مهمترین سوالاتی که ممکن است بپرسید و به آن جواب بدهید می‌رسیم کدام مهارت است که اگر آن را در خود ایجاد کنم و آن را به طرز عالی انجام بدهم بیشترین تأثیر مثبت را بر شغل و حرفه من بر جای خواهد گذاشت باید از این سوال برای هدایت فعالیت شغلی خود در همه مدت عمرتان استفاده کنید برای یافتن جواب به درون خود نگاه کنید. به احتمال زیاد جواب را پیدا می کنید. این سوال را از رئیستان بکنید از همکارانتان سوال کنید، از دوستان و افراد خانوادهتان بپرسید، دست به کار شوید تا عملکرد خود در این حوزه را بهبود بخشید. خبر خوبی است که تمامی مهارت تجاری و حرفه یادگرفتنی یاد گرفتنی هستند. اگر شخص دیگری در شاخصه کلیدی خاصی عالی باشد، این ثابت میکند که اگر شما هم تصمیم بگیرید و بخواهید، میتوانید در این زمینه در سطح عالی قرار بگیرید. یکی از سریع ترین و بهترین راه‌های متوقف ساختن مسامه کاری و انجام دادن سریعتر کارها این است که در شاخصه های کلیدی کارتان در سطح عالی ظاهر شوید این موضوع میتواند در زندگی و کار و حرفهتان به اندازه ی هر چیز دیگری اهمیت داشته باشد. گرباغه را بخورید یک شاخصه های مهم کاری خود را شناسایی کنید اینها کدام هستند؟ هدف های ای را که باید به با آن دسترسی پیدا کنید تا کارتان را به نحوه احسن انجام بدهید روی یک برگی کاغذ بنویسید برای هر شاخصه به خود از یک تا ده امتیاز بدهید و بعد شاخصه ای را پیدا کنید که اگر در آن به نتایج بهتر و عالی برسید در کارتان به شما بیشترین کمک را می کند دو این نوشته را به نزد رئیستان ببرید و درباره آن با او بحث کنید. از او بخواهید صادقانه به شما جواب بدهد و برنامهتان را ارزیابی نماید. تنها در صورتی می توانید به نتایج بهتر دست پیدا کنید که به صحبت های سازنده دیگران بها بدهید. نتایج خود را با کارکنان دیگر در میان بگذارید با همسرتان در این خصوص صحبت کنید. عادت کنید در تمام مدت که کار می کنید، از این رویه استفاده نم هرگز از بهبودی یافتن دست نکشید این تصمیم به تنهایی میتواند زندگی شما را متحول سازد قانون سراب به ببرید. هر جایی که هستید با هرچه دارید کاری صورت بدهید. یک سیاست مدار. سکار مهمی که صورت میدهید در برگیرنده بخش اعظم ارزشی است که به تجارت یا سازمان خود تحویل میدهید توانایی شما در شناسایی این سکار عمده، و بعد صرف وقت کردن با تمام وجود روی آنها برای اینکه در بهترین حد خود ظاهر شوید ضرورت دارد. اجازه بدهید یک حکایت واقعی را برایتان تعریف کنم. سینتیا سه ماه پس از اولین جلسه‌ای که برای راهنمایی شدن در دوره آموزشی من شرکت کرده بود، از جای خود بلند شد و حکایتی را برای سایر شرکت کنندگان در دوره تعریف کرد. او گفت وقتی 90 روز قبل به اینجا آمدم گفتید روشهایی را با من در میان می‌گذارید که به کمک آنها در مدت دوازده ماه درآمد و اوقات فراغتم را دو برابر بکنم به نظرم کاملا غیر واقع بینانه می‌رسید اما مایل بودم که این را امتحان کنم روز اول شما از من خواستید فهرستی از همه کارهای را یک هفته یا یک ماه انجام میدهم تهیه کنم. من توانستم به هفته مورد که در قبال آنها مسئولیت داشتم اشاره کنم. مشکل من این بود که زیر بار انجام دادن کارها کلافه شده بودم. روزی ده تا دوازده ساعت و هفتهی شش روز کار میکردم. فرصت آن را نداشتم که به اندازه کافی با شوهر و دو فرزند کم سالم وقت صرف کنم، اما راهحلی به نظرم نمی رسید. مدت هشت سال برای یک شرکت به سرعت در حال رشد کار کرده بودم، اما همیشه احساس می کردم که کارم بسیار زیاد است و من توانایی انجام دادن همه این کارها را ندارم. یک چیز در تمام مدت روز و به ماجرا این گونه ادامه داد پس از تهییه این فهرست به من گفتید این سؤال را مطرح کنم اگر بتوانی تمام مدت روز تنها یکی از کارهای مندرج در این فهرست را انتخاب کنی کدام کار است که بیشترین بهره را به شرکت تو میدهند وقتی این کار را شناسایی کردم که البته کار دشواری نبود دور آن را دایره کشیدم بعد شما پرسیدید اگر بتوانی تمام مدت روز تنها یک کار مهم دیگر از فهرست کارهایت انتخاب کنی کدام کار است که بیشترین بهره را به شرکت تو می‌دهد پس از آنکه دومین کار مهم را شناسایی کردم همین سال را درباره سومین کار مهم کردید بعد حرفی زدید که در این زمان مرا شوکه کرد شما گفتید 90 درصد ارزشی را که به شرکت خود می‌دهید، حاصل این سکار است. هر کار دیگری که بکنید، یا کار مکمل یا کار حمایتی است که می‌توانید انجام دادن آن را یا به دیگران واگذار کنید و یا اصولاً آن را انجام ندهید. اقدام فوری سنتیا به صحبت‌هایش ادامه داد. وقتی به این سه کار نگاه کردم دیدم اینها سکاری هستند که بیشترین فایده را به شرکتم میرسانند. آن روز جمعه بود. روز دوشنبه ساعت ده صبح با رئیسم ملاقات کردم و موضوع را با او در میان گذاشتم. از او خواستم به من کمک کند تا تنها آن سه کار مهم را انجام بدهم و سایر کارها را به دیگران واگذار کنم. احساس کردم اگر تنها روی این سه کار مهم متمرکز شوم و تمام مدت روز آنها را انجام بدهم می توانم سود رسانی به شرکتم را به بیش از دو برابر افزایش دهم. به رئیسم گفتم اگر این کار را کردم انتظار دارم که حقوقم را به دو برابر افزایش دهد. سینتیا گفت رئیسم کاملا ساکت بود. نگاهی به فهرست کارهایم انداخت، به خودم نگاه کرد و دوباره به فهرست برگشت و گفت بسیار خوب، با توجه به ساعتی که روی دیوار پشت سرش بود، ساعت ده و بیست و یک دقیقه را نشان می داد. او گفت، بله، حق با توست. این سه کار مهمترین کارهایی هستند که در این شرکت انجام می دهی. کسی هم این سکار را بهتر از تو انجام نمی دهد. به تو کمک می کنم تا بقیه کارهایت را به دیگران تفیض کنی. اگر سودرسانیت به شرکت را دو برابر کردی، من هم حقوقت را دو برابر می کنم. زندگیتان را متحول کنید. سینتیا این گونه به حکایتش پایان داد. او این کار را کرد، من هم کارم را کردم. او کارهای کم اهمیت مرا به دیگران واگذار کرد تا من بتوانم روی سه مهمی که می کردم متمرکز شوم. من در مدت سی روز بازدهیم را دو برابر کردم و او هم درآمد مرا دو برابر کرد. من بیش از هشت سال به شدت تلاش کرده بودم و توانستم در مدت یک ماه درآمدم را به دو برابر افزایش دهم روزی ده یا دوازده ساعت هم کار نکردم. به جای آن از ساعت هشت صبح تا ساعت پنج بعد از کار کردم. در نتیجه توانستم شبها و تعطیلات آخر هفته را با شوهر و فرزندانم بگذرانم. متمرکز شدن روی کارهای کلیدی زندگی مرا متحول ساخت. روش فهرست سری در اینجا تمرینی را با شما در میان میگذارم که ما در اوائل مشاوره خود، با مراجعان از آن استفاده می کنیم. به آنها برگه کاغذی می دهیم و می‌گوییم در مدت سی ثانیه مهمترین سه هدفی را که در زندگی دارید یادداشت کنید به این نتیجه رسیده ایم که وقتی اشخاص تنها سی ثانیه فرصت داشته باشند تا مهمترین سه هدف خود را بنویسند جوابشان به همان اندازه درست است که اگر برای این کار سی دقیقه یا سه ساعت وقت صرف می کردند. در هشتاد درصد مواقع، اشخاص سه هدف مشترک را پی میگیرند، اول، هدف مالی و شغلی. دوم، هدف روابط شخصی یا خانوادگی. و سوم، هدف سلامتی و آمادگی جسمانی. و اینطور هم باید باشد. اینها سه زمینه و حوزه مهم زندگی هستند. اگر در هر یک از این سه زمینه به خود امتیازی از یک تا ده بدهید، بلافاصله متوجه می شوید در چه زمینه هایی در زندگی خوب ظاهر می شوید و در چه زمینه هایی به پیشرفت و بهبودی احتیاج دارید. این را خودتان امتحان کنید و نتیجهش را ببینید. از همسر و فرزندانتان بخواهید این تمرین را انجام دهند. جوابها شما را شگفت زده می کنند. در مرحله بعدی آموزش با طرح سوالات زیر تمرین را بست می دهیم. 1. در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زمینه شغلی چیست؟ دو. در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زمینه های روابط خانوادگی کدام است؟ 3. در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زمینه مالی کدام است؟ چهار. در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زمینه سلامتی کدام است؟ 5. در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زمینه های رشد شخصی و حرفی کدام است؟ شش در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زمینه های اجتماعی کدام است؟ 7. در حال حاضر مهمترین سه هدف شما در زندگی چیست؟ وقتی خودتان را مجبور می‌کنید که به این سوالات در مدت 30 ثانیه یا کمتر جواب بدهید، اغلب از جوابهایی که بدست میآورید حیرت زده می‌شوید. جواب‌های شما هرچه باشد، واقعیت موقعیت شما را در زندگی نشان می‌دهد. این جواب‌ها به شما می‌گویند که برایتان چه چیزهایی اهمیت دارند. در حالی که خودتان را سازماندهی می‌کنید، در حالی که هدفها و اولویت‌های خود را مشخص می‌سازید و در هر زمان روی یک کار متمرکز می‌شوید و بر آن می‌شوید که مهمترین کارهایتان را انجام بدهید، هرگز نباید فراموش کنید که هدف اصلی و نهایی شما داشتن زندگی طولانی، شاد و سلامت است. مدیریت زمان وسیله‌ای برای رسیدن به هدف است. دلیل اصلی ایجاد مهارت‌های مدیریت زمان این است که بتوانید کارهای به مهم را انجام بدهید و بعد فرصتی برایتان باقی بماند که آن را صرف زندگی شخصی خود بکنید تا بیشترین خوشبختی و رضایت خاطر را برای خود تدارک ببینید. 85 درصد سعادت شما در زندگی ناشی از روابطی است که با دیگران و به خصوص با نزدیکترین اشخاص به خود و نیز افراد خانواده ایتان دارید. یکی از مهمترین تعیین کنندگان کیفیت روابط شما مدت زمانی است که آن را صرف روبرو شدن با کسانی که آنها را دوست دارید می کنید. هدف از مدیریت زمان خوردن آن باغه، انجام دادن کارهای بیشتر در زمان کمتر است تا بتوانید فرصتی برای صرف وقت کردن با عزیزانتان داشته باشید. قواعدی مهم، کیفیت زمان در محل کار و کمیت زمان در منزل از اهمیت فراوان برخوردار است. در تمام دقایق کاری خود کار بکنید. برای داشتن یک زندگی متعادل باید در تمام دقایق کاری خود کار کنید. وقتی به سر کار می روید سرتان را رو پایین بیاندازید و کار کنید. کمی زودتر کارتان را شروع کنید و کمی دیرتر محل کار را ترک نمایید. در زمان کار هم پرتلاشتر ظاهر شوید. زمان را تلف نکنید. هر دقیقی که صرف حرف زدنهای بیخاصیت با همکاران شود، فرصتی است که آن را از کارتان دریغ می از همه اینها بدتر، زمانی که در محل کار تلف می کنید، از فرصت با اعضای خانواده بودن شما می برای تمام کردن کارتان یا باید بیشتر در محل کار باقی بمانید و یا کارهایتان را به منزل ببرید اگر در محل کار با کارایی زیاد فعالیت نکنید استرس غیر لازمی در خود ایجاد می کنید و افراد خانواده را از بهترین کسی که می توانند با او باشند محروم می میگویند دختر کوچکی از مادرش پرسید مادر چرا پدر هر شب کیفی پر از کار به خانه می آورد و با ما صرف وقت نمی کند؟ مادرش از روی دلسوزی و همدردی جواب می دهد عزیزم پدرت نمی تواند همه کارهایش را تیه روز تمام کند و بنابراین آنها را به خانه می آورد تا انجام بدهد بعد دختر کوچک می پرسد اگر اینطور است چرا او را در کراس دانش آموزان ذهن نمی گذارند؟ تعادل انتخاب, انتخاب کردنی نیست یکی از مشهورترین گفته های یونانیان باستان این بود در هر کاری اعتدال را رعایت کنید باید تعادل میان کار و زندگی شخصی ایجاد نمایید در محل کار باید اولویت ها را رعایت کنید و به مهمترین کارهایتان بپردازید در ضمن نباید هرگز این مهم را فراموش کنید که دلیل کار کردن با کارایی زیاد این است که فرصت بیشتری پیدا کنید تا با افراد خانواده صرف وقت نمایید. گاه اشخاص از من می‌پرسند چگونه می‌توانم تعادل میان کار و زندگی خانوادگی ایجاد کنم؟ من در اینجا به سهم خود از آنها می‌پرسم یک بندباز وقتی روی تناب در ارتفاع زیاد راه می رود، چه زمانی باید تعادل خود را حفظ کند؟ و آنها جواب میدهند در تمام لحظات. حالا به آنها می گویم، باید در همه دقایق تعادل میان کار و زندگی خانوادگی را رعایت کنید. هرگز به مرحلهی نمی رسید که تعادل کاملی میان کار و زندگی خانوادگی ایجاد کنید. باید پیوسته در این راه تلاش کنید. هدف شما باید این باشد که در محیط کار در بهترین حد خود ظاهر شوید. باید بیشترین کار ممکن را انجام دهید تا بیشترین پاداش و درآمد را نصیب خود سازید. در ضمن همیشه به یاد داشته باشید سر راه هر گلی را که میتوانید بکنید. هرگز فراموش نکنید که چرا کار می کنید و چرا می خواهید از زمانی که صرف کار می کنید بیشترین بهره برداری را بکنید. هرچه بیشتر با عزیزانتان صرف وقت کنید شادمانتر می شوید را بخورید مهمترین کارهایتان را شناسایی کنید از خود بپرسید اگر در تمام مدت روز تنها بتوانم روی یک کار متمرکز شوم، کدام کار است که سود دهی بیشتری دارد این تمرین را دوباره دیگر انجام بدهید پس از آن که سه کار مهم خود را شناسایی کردید در تمام مدت روز به آنها بپردازید دو سه هدف مهم خود را در حیطه های مختلف زندگی شناسایی کنید اولویت هر کدام را مشخص سازید برنامه برای تحقق آنها بریزید و همه روزه برای اجرای برنامه های خود تلاش کنید یه دستاوردهای خود حیرت زده خواهید شد قبل از اینکه شروع بکنید تدارک ببینید هر قدر هم از توانایی خود استفاده بکنید، نمی در مدت عمرتان از همه توانایی های خود استفاده نمایید. جیمز تی مکی یکی از بهترین روش های قلبه بر صاحه کاری و تنبلی و انجام دادن سریعتر این است که قبل از دست به کار شدن شرایط را برای انجام دادن کار پیش رو محیا سازید و تدارک لازم را ببینید. وقتی کاملا آماده شدید در حکم یک تفنگ فشن گذاری شده و یا کمانی هستید که زهش کشیده شده و آماده ی رها شدن است.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 مولدترین اشخاص زمانی را صرف می کنند تا مکان کارشان از نوعی باشد که از صرف وقت خود لذت ببرند. هرچه محل کارتان خلوتتر و پاکیز باشد شروع کردن کار و دست به کار شدن برایتان راحت تر می شود. یکی از روش عالی غلبه بر مصاح کاری خوردن قورباغه ها این است که همه چیز را از قبل به خوبی آماده کنید.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 هرچه محیط کارتان خلوتتر و منظمتر باشد، مثبتتر رفتار می کنید و احساس آرامش بیشتری دارید. امروز مسمم شوید که میزتان را مرتب کنید، به اتاق کارتان نظمی بدهید تا احساس کنید که مؤثر و کارآمد هستید و هرگاه پشت میزتان می نشینید، محیای کار می باشید. در هر لحظه روی یک کار متمرکز شوید. اشخاصی که به نسبت از توانمندی‌های متوسط برخوردارند، اگر با تمام وجود در هر لحظه به یک کار بچسبند، به مراتب موفق‌تر می‌گردند. ساموئل اسمایلز از قدیم گفتند یک یارد یک یارد مشکل است اما یک اینچ یک اینچ هر کاری شدنی است. یکی از بهترین راه های غلبه بر مسامه کاری این است که ذهن خود را از وظیفه عظیمی که پیش رو دارید دور سازید و به جای آن به اقدام ساده‌ای که می انجام دهید توجه نمایید. یکی از بهترین راه‌های خوردن یک قورباغه بزرگ لقمه لقمه خوردن آن است. لاوتزو می گفت سفر هزار فرسنگی با برداشتن یک قدم ساده شروع می‌شود. این یک راهکار عظیم و عالی برای غلبه بر تنبلی و انجام دادن کارهای بیشتر در سرعت بیشتر است. عبور از صحرای عظیم سالها قبل از دل صحرای بزرگ الجزایر را عبور میکرد. در آن زمان سالها بود که فرانسویان صحرای الجزایر را ترک کرده بودند و جایگاه های تحویل سوختی که زمانی وجود داشت خالی و متروکه شده بودند. ارز صحرا به 500 مایل بالغ می شد در آن اثری از آب، غذا، یک تیغه علف و حتی یک پرنده دیده نمیشد. بیابان برهوت بود، صاف و یکدست، مانند یک محوطه‌ی پارکینگ شنی زرد رنگ و وسیع که از هر طرف نگاه میکردی به افق رسیده بود. در سالهای گذشته بیش از 1300 نفر انسان در راه گذر از این صحرا جان باخته بودند. اغلب شنهای شناور، اتومبیلها را در دل صحرا متوقف ساخته بودند و مسافران در شب گم شده بودند. فرانسویان برای اینکه راه را گم نکنند در فاصله هر پنج کیلومتر، بشکه نفت پنجا و پنج گالونی گذاشته بودند به این دلیل در طی روز هر جایی که بودیم می توانستیم دو بشکه نفت را ببینیم یکی ای که در آن لحظه از آن گذشته بودیم و دیگری بشکهی که در فاصله پنج کیلومتری ما قرار داشت و همین کافی بود تنها کاری که باید میکردیم این بود که خود را به بشکه جلویی برسانیم. در نتیجه توانستیم از بزرگترین صحرای جهان از طریق حرکت بشکه به بشکه عبور کنیم. در حال لحظه روی یک کار متمرکز شدید. به همین شکل میتوانید بزرگترین وظیفه خود در زندگی را یک قدم یک قدم انجام دهید. وظیفه شما این است تا حدی که چشمتان میبیند حرکت کنید. اینگونه به اندازه کافی میبینید که قدم به جلو بردارید. برای انجام دادن یک کار بزرگ باید با ایمان و اطمینان خاطر قدم بردارید تا قدم بعدی بلا فاصله برای شما روشن شود. یک زندگی عظیم یا یک شغل بزرگ هم قدم به قدم صورت خارجی به خود میگیرد. وقتی هر قدم را تکمیل کردید، قدم بعدی را بردارید. استقلال مالی هم با پسانداز اندک اندک ماهانه و سال به سال حاصل می شود. سلامتی و آمادگی جسمانی هم با کمی کمتر خوردن و کمی بیشتر ورزش کردن روزانه و ماه به ماه حاصل می شود. می توانید بر مسامه کاری قلبه کنید و کارهای ستورگ انجام دهید، کافیست قدم اول را در راستای هدف بردارید و بعد بشکه به بشکه حرکت کنید. گرباقه را بخورید یک هر هدف وظیفه یا پروژه ای را که در آن مسامحه کرده اید انتخاب کنید و بعد برای انجام دادن آن بلافاصل قدمی به جلو بردارید در مواقعی تنها کاری که باید بکنید تا کار شروع شود این است که بنشینید و فهرستی از همه کارهایی که باید صورت دهید تهیه کنید دو بعد دست بکار شوید و مورد نخست کار را انجام دهید بعد به سراغ قدم دوم بروید و غیره و غیره در پایان از نتیجهی که به دست آورده اید حیرت خواهید کرد مهارت‌های کلیدی خود را افزایش دهید تنها ابزار مطمئن برای موفق شدن این است که در هر کاری که می کنید خدمات بیشتری از آنچه از شما توقع دارند ارائه بدهید اوک ماندینو انجام دادن تکالیف یکی از اصول مهم رسیدن به بهروری در سطح بالا است. آنچه را که لازم است، بیاموزید تا بتوانید به طرز عالی کارهایتان را انجام بدهید. هرچه در خوردن نوع به از غرباقه تبخور بیشتری پیدا کنید، با احتمال بیشتری کاری را که لازم است انجام می دهید. یکی از دلایل عمده دست به دست کردن و مصامحه کاری احساس نابسندگی داشتن، نداشتن اعتماد به نفس و یا ناتوانی در انجام دادن یک بخش کلیدی از کار است. احساس ضعف کردن در یک حوزه کلیدی کافی است که شما را از شروع به کار کردن معیوس کند. پیوسته بر مهارت‌های خود بیفزایید و در زمینه‌های کلیدی کار شرایط لازم را به دست آورید. اما به خاطر داشته باشید، هر اندازه امروز خوب و شایسته باشید، علم و اطلاع و دانشتان به سرعت تحلیل می روید. همانطور که پتریری مربی بسکتبال می گوید، اگر بهتر نشوید، پس رفت می کنید. هرگز یاد گرفتن را متوقف نکنید. یکی از مفیدترین روش های مدیریت زمان این است که در کارتان بهتر شوید. پیشرفت و بهبود در امور شخصی و شغلی یکی از بهترین سرفجوی کنندگان در زمان است. هرچه در انجام دادن یک کار کلیدی موثرتر عمل کنید، انگیزه بیشتری برای دست به کار شدن پیدا می کنید. هرچه بهتر شوید، انرژی و اشتیاق بیشتری پیدا می‌کنید. وقتی بدانید که می توانید کارتان را به خوبی انجام بدهید، به راحتی بیشتری با مسامعه کاری برخورد می کنید و کارتان را سریعتر و بهتر از هر شرایط دیگری انجام می دهید. کمی اطلاعات بیشتر یا یک مهارت اضافی می تواند در توانایی شما برای انجام دادن کار به طرز عالی تفاوت حیرت انگیزی تولید کند. مهمترین کارهایتان را شناسایی کنید. و بعد برنامه‌ای بریزید که بتوانید در این زمینه ها بر مهارت‌های خود بیافزایید. قاعده مهم یادگیری پیوسته و ادامهدار کمترین چیزی است که برای موفق شدن در هر زمینه‌ای به آن احتیاج دارید. اجازه ندهید یک نقطه ضعف و یا ناتوانی در یک حوزه شما را از دستیابی به نتایج مطلوب باز دارد. همه چیز در کار و بازرگانی آموختنی است و آنچرا که دیگران آموختند شما هم میتوانید بیاموزید. بهترین خبری که میتوانم به شما بدهم این است که میتوانید برای اثر بخشتر شدن و افزایش کارایی خود هر مهارتی را که لازم است بیاموزید. اگر لازم شد میتوانید یک تایپیست ده انگشتی شوید. میتوانید متخصص در استفاده از کامپیوتر بشوید. می توانید یک مذاکر کننده یا عالی یا یک فروشنده ی کم نزیر بشوید. می توانید سخنرانی کردن در برابر جمع را یاد بگیرید. می توانید خوب نوشتن را بیاموزید. اینها جملگی مهارت هایی هستند که می توانید بیاموزید. کافی است برای انجام دادن آنها اولویت قائل شوید. سه اقدام برای تسلط پیدا کردن. اول روزی یک ساعت در زمینه ی کاریتان مطالعه کنید. صبح کمی زودتر از خواب بیدار شوید و به مدت سی دقیقه یا یک ساعت کتاب یا ای را که حاوی اطلاعاتی باشد که بتواند به اثر بخشی شما بیافزاید بخوانید. دوم در زمینه مهارتهای کلیدی در دوره های آموزشی موجود که بتواند به شما کمک کند ثبت نام کنید. در همایش‌ها و یا جلسات در ارتباط با حرفه یا شغل خود شرکت کنید. به جلسات و کارگاه‌های آموزشی بروید. در ردیف های جلو بنشینید و یادداشت برداری کنید. نوارهای ضبط شده دوره را خریداری کنید. کاری کنید که در زمینه کاری خود به یکی از بافضل و دانشترین افراد تبدیل گردید. سوم وقتی در اتومبیل خود سوار میشوید، به نوارهای آموزشی گوش بدهید. اشخاص به طور متوسط هر سال 500 تا هزار ساعت پشت فرمان اتومبیل خود می نشینند. زمان رانندگی را به جلسه یادگیری تبدیل کنید. می توانید تنها با گوش دادن به نوارهای آموزشی در اتومبیل به یکی از پردرآمدترین اشخاص در حوزه کاری خود تبدیل شوید. هرچه بیشتر بیاموزید و بدانید احساس اعتماد و اطمینان بیشتری به دست میآورید و در شرایطی قرار میگیرید که در زمینه کاری خود موثرتر عمل کنید. هرچه بیشتر یاد بگیرید، بیشتر می توانید بیاموزید. درست همانطور که می توانید با تمرینات با وزنه عضلات خود را قوی کنید، میتید عضات ذهنی خود را با ورزشهای ذهنی تقویت کنید. هیچ محدودیتی برای پیشرفت کردن وجود ندارد. تنها محدودیتی که وجود دارد حدی است که برای خود قائل میشوید. بخورید. باید. یک از امروز تصمیم بگیرید از خودآموزها بیشتر استفاده کنید. طلبه و دانشوی همه مدت عمر حرفه خود شوید. درس خواندن برای حرفه‌ای ها تمامی ندارد. دو, دو. کدام مهارت است که به شما کمک می کند تا به هدفهای بهتر و سریعتری برسید برای اینکه در آینده در حوزه کاری خود در سطح عالی و برجسته قرار بگیرید به چه سلاحیتهای احتیاج دارید اینها هرچه هستند هدفی را مشخص سازید برنامه بریزید و بر میزان توانایی خود در این زمینه ها بیافزایید سمم شوید که در کارتان در سطح بهترین ها ظاهر شوید. استعدادهای خاص خود را تقویت کنید. کارتان را بکنید. تنها به این هم قناعت نکنید، کمی بیشتر کار کنید و بدانید که همین کمی بیشتر به اندازه بقیه کارتان ارزش دارد. دین بریکس. شما عالی و کم نظیر هستید، شما برخوردار از استعدادها و هایی هستید که شما را از هر کس دیگری متمایز می‌سازد. گرباقه هایی وجود دارند که می توانید آنها را بخورید و یا خوردنشان را یاد بگیرید که می توانند شما را یکی از مهمترین افراد نسل خودتان بکنند. کارهایی هستند که می توانید انجام بدهید یا انجام دادنشان را یاد بگیرید که می توانند از شما یک انسان العاده و ارزشمند برای خودتان و دیگران بسازند. وظیفه شما این است که این زمینه های منحصر به فرد را در خود تمیز بدهید و کاری کنید که در این زمینهها خوب و بسیار خوب شوید. بر توانایی کسب درآمد خود بی ارزش دارایی شما در زمینه مالی توانایی کسب درآمد است. توانایی شما در کار کردن این امکان را می دهد که همه ساله صرفاً با بکار بردن دانش و محارتهایتان ده هزار دلار درآمد داشته باشید. این توانایی شماست که بهتر و سریعتر از دیگران می توانید های خاص را ببلعید. ممکن است همه چیز خود، خانه، اتومبیل، شغل و حساب بانکی را از دست بدهید. اما تا زمانی که قدرت کسب درآمد داشته باشید می توانید اموالتان را پس بگیرید و از آن هم ثروتمندتر شوید. از استعدادها و قابلیت هایتان به طور منظم استفاده کنید. کدام کار است که آن را به خوبی انجام می دهید؟ در چه کاری خوب هستید؟ کدام کار است که آن را به خوبی انجام می دهید که انجام دادنش برای دیگران دشوار است؟ با نگاهی به گذشته چه عاملی بیش از همه در موفقیت شما در زندگی و کارتان سهیم بوده است؟ مهمترین قرباقهی که تا کنون خورده اید کدام بوده است؟ آمان. کاری را که دوست دارید انجام بدهید شما به گونهی طراحی شده اید که از انجام دادن کاری که در آن توانمند هستید لذت ببرید از کدام بخش از کارتان بیشترین لذت را میبرید؟ از خوردن چنو گورباقی بیشترین لذت را میبرید همین حقیقت که شما از چیزی لذت میبرید بدین من است که در وجود خود از این توانمندی برخوردارید که در این زمینه خاص تبدیل به بهترین ها شوید یکی از بزرگترین مسئولیت های شما در زندگی تصمیم در این خصوص است که از چه کاری بیشترین لذت را میبرید و بعد با تمام وجود آن کار را به بهترین شکل انجام بدهید به انواع کارها و مسئولیتهای خود نگاه کنید کدام کار است که وقتی آن را انجام می‌دهید با بیشترین تمجید و تحسین دیگران روبرو گردید چه کاری است که وقتی انجام می‌دهید به طور مثبت روی کار و عملکرد دیگران تاثیر می‌گذارد انسان‌های موفق بدون کمترین تردید کسانی هستند که وقتی را صرف کردند تا بدانند چه کاری است که از انجام دادن آن بیشترین لذت را میبرند. آنها میدانند چه کاری اگر بکنند، بیشترین تأثیر را در کارشان سبب می و بعد روی آن کار و فعالیت متمرکز می باید همیشه بهترین انرژی و قابلیت‌های خود را صرف پرداختن و به اتمام رساندن کارهایی بکنید که استعدادها و توانمندی‌هایتان به شما امکان آن را می‌دهند که آنها را به نحو احسن انجام بدهید. نمی‌توانید همه کارها را انجام بدهید، اما می‌توانید آن معدود کارهایی را که در آن عالی هستید، انجام بدهید. کارهایی که به واقع میتوانند تفاوتی ایجاد کنند قرباقه را بخوریم پیوسته این سوالات کلیدی را از خود بپرس در چه کاری به واقع خوب هستم؟ از کدام بخش از کارم بیشترین لذت را میبرم؟ در گذشته چه عاملی بیشترین موفقیت مرا سبب شده است؟ اگر بتوانم کاری صورت بدهم، آن کار چه اگر در قرعه کشی بلیط‌های های برنده یک جایزه هنگفت شوید و بتوانید کار مورد علاقه‌تان را انتخاب کنید کدام کار را انتخاب می کنید؟ چه تدارکی باید ببینید تا آن کار را به نحوه احسن انجام بدهید؟ جواب شما هرچه هست از همین امروز شروع کنید دو برنامه شخصی بریزید و خود را برای انجام دادن مهمترین کاری که باید بکنید آماده سازید به زمینهایی که از استعداد عالی برخوردارید دقیق شدید اینگونه بهتر می توانید به حد اکثر توانمندی های شخصی خود دست پیدا کنید موانع مهم پیش روی خود را شناسایی کنید. تمام اندیشه را روی کاری که در دست دارید متمرکز سازید نور خورشید تا زمانی که متمرکز نشود نمی سوزاند. الکساندر بل در فاصله میان جایی که همکنون در آن قرار دارید و هدفی که می‌خواهید به آن برسید یک مانع بزرگ وجود دارد که قبل از رسیدن به هدف خود باید بر آن غلبه کنید. وظیفه شما این است که این مانع را شناسایی کنید. چه عاملی نمیگذارد پیشرفت کنید؟ کدام عوامل سرعت دستیابی شما را به هدفتان تعیین کنند؟ چه عاملی سرعت حرکت شما را از این جایی که هستید به جایی که میخواهید به آن برسید تعیین می کند؟ چه عاملی سبب می شود تا نتوانید غورباغ هایی را که می به واقع در شما تفاوتی ایجاد کنند بخورید؟ چرا تا کنون به هدفتان دست نیافته اید؟ اینها برخی از مهمترین سوالاتی هستند که باید آنها را از خود بپرسید و برای دستیابی به سطح بالای اثر بخشی شخصی از آنها استفاده نمایید. هر کاری را که باید بکنید، همیشه عامل محدود کننده ای وجود دارد که مشخص میسازد به چه خوبی و به چه سرعتی آن را به انجام میرسانید. وظیفه شما این است که این کار را مطالعه کنید و عامل کننده و بازدارنده آن را شناسایی نمایید. بعد باید تمامی انرژی خود را صرف برطرف کردن آن عامل بازدارنده کنید. عامل کننده را شناسایی کنید. تقریباً در هر کاری که بگویید، بزرگ یا کوچک، یک عامل وجود دارد که سرعت رسیدن شما به هدف یا انجام دادن کار را مشخص می‌سازد. این کدام عامل است؟ انرژی حیاتی خود را روی این بخش متمرکز سازید. این می‌تواند ارزشمندترین استفاده از زمان و استعدادهای شما باشد. این مانع می‌تواند کسی باشد که به کمک یا تصمیم او احتیاج دارید، منبعی باشد که آن را به دست می‌آورید و یا نقطه ضعفی در بخشی از سازمان شما و یا هر چیز دیگری باشد. اما عامل تعیین کننده همیشه وجود دارد و همیشه وظیفه شماست که آن را بیابید مثلا هدف تجارت و بازرگانی تولید مشتری و حفظ آنهاست اگر این کار را به اندازه کافی انجام بدهید شرکت شما به سود میرسد و به رشد خود ادامه میدهد در هر کاری عامل محدود کننده ای وجود دارد این یک عامل گلوگیر است که مشخص می‌کند یک شرکت به چه سرعتی به هدف‌های خود می‌رسد. این عامل می‌تواند بازاریابی، میزان فروش و یا نیروی کار باشد. می‌تواند هزینه‌های عملیاتی و یا روش‌های تولید باشد. می‌تواند اندازه پول در جریان یا هزینه‌ها باشد. موفقیت شرکت را عواملی چون رقابت، مشتریان و یا شکل بازار رقم می‌زند. یکی از این عوامل بیش از هر عامل دیگری تعیین میکند که شرکت به چه سرعتی به هدفهای رشد و بهرهدایی خود دست مییابد این کدام عامل است شناسایی دقیق عامل کننده در هر فرایندی و تمرکز کردن روی آن عامل اغلب میتواند پیشرفت و ترقی بیشتری را در مدت زمان کوتاه‌تری سبب گردد کاربرد قاعده 80 به 20 در موانع قاعده 80 به 20 در مورد محدودیت‌های زندگی و کار شما هم مساق دارد این بدان است که 80 درصد محدودیت‌ها عواملی که مانع از رسیدن شما به هدفتان می‌شوند درونی هستند اینها در محدوده شما قرار دارند در محدوده کیفیات توانمندی‌ها عادت‌ها دیسیپلین و یا سلاحیت های شما قرار دارند. تنها 20 درصد عوامل محدود کننده برای شما و یا سازمان شما شکل بیرونی دارند. تنها 20 درصد عوامل مربوط به شرایط بیرونی از قبیل رقابت بازار، دولت یا سازمان های دیگر است. عامل اصلی محدود کننده شما می تواند چیزی کوچک و کم مقدار باشد. ممکن است 100 درصد مشخص نباشد. گاه لازم است فهرستی از کلیه مراحل و اقدامات کارتان تهیه کنید و هر فعالیتی را وارسی کنید تا دقیقا بدانید چه عاملی مانع از پیشرفت شما می شود. گاه این می تواند تصور منفی و یا اعتراض و مخالفت از سوی مشتریانی باشد که بر مجموعه فرایند فروش تأثیر می گذارند. گاه این عامل محدود کننده یک ویژگی خاص است که مانع از رشد فروش یک کالا یا خدمت می شود. صادقانه به شرکت خود نگاه کنید. به رئیس، همکاران و کارکنان تحت نظر خود نگاه کنید و ببینید آیا یک نقطه ضعف کلیدی وجود دارد که سبب می شود شرکت شما به هدفهایش نرسد؟ آیا عاملی وجود دارد که در حکم ترمز برای رسیدن به هدفهای کلیدی شما باشد؟ در زندگی خودتان هم باید صادقانه عامل محدود کننده یا مهارت محدود کننده ای را که سرعت دستیابی شما به هدفهای شخصیتان را مشخص می سازد، شناسایی کنید؟ به خود نگاه کنید. انسان‌های موفق تحلیل درباره عوامل محدود کننده و بازدارنده را با طرح این پرسش شروع می‌کنند: چه عاملی در من مانع از پیش رفتم می‌شود؟ آنها مسئولیت کامل را می‌پذیرند و برای پیدا کردن علت مشکل و راه حل آن در خود نگاه می‌کنند. پیوسته این سوال را از خود بپرسید. چه عاملی سرعت دستیابی مرا به هدف مشخص میسازد؟ تعریف کردن عامل بازدارنده راهکار شما را برای برطرف کردن آن مشخص میسازد. دقت, دقت عمل داشته باشید باشد. ناتوانی در شناسایی محدودیت سری و یا شناسایی محدودیت اشتباه میتواند شما را در مسیر اشتباه به حرکت درآورد میتوانید به کار حل کردن مسائلی که در واقع مسئله نیست پایان بدهید در پس هر آمل بازدارنده و محدود کننده نقطه گلوگیری وجود دارد وقتی این نقطه را به درستی شناسایی کنیم و آن را از میان برداریم به عامل محدود کننده و بازدارنده دیگری برمیخوریم خواه این عامل حضور به موقع و در رأس ساعت در محل کار باشد یا هر چیز دیگر همیشه عوامل محدود کننده و گلوگیرهایی در کارند که سرعت ترقی شما را مشخص می سازند. وظیفه شما این است که این تنگناها را بشناسید و انرژی خود را در اسرع وقت مصروف برطرف کردن آنها نمایید. اگر روز خود را با برطرف کردن یک عامل محدود کننده شروع کنید، شما را سرشار از انرژی می کند. شرایطی فراهم میسازد تا کاری را که قرار است انجام بدهید. اغلب یک عامل مهم محدود کننده مهمترین ای است که در آن لحظه می توانید آن را بخورید. خود باغرا بخورید یک مهمترین هدف خود را در زندگی مشخص سازید این کدام هدف است کدام تک هدف است که اگر به آن دست پیدا کنید میتواند بیشترین تأثیر را بر زندگی شما بگذارد کدام موفقیت است که میتواند بیشترین تأثیر را بر زندگی کاری شما بر جای بگذارد دو وقتی مانع بازدارنده عمده و کلیدی خود را شناختید از خود بپرسید چه عاملی سرعت دستیابی من به این هدف را مشخص می‌سازد چرا تا کنون به این هدف نرسیدم چه عاملی در من سبب می‌شود که به هدفم نرسم جواب‌های شما هر چه باشد بلافاصله دست به کار شوید کاری صورت دهید هر کاری را که لازم است بکنید اما شروع کنید به خودتان فشار بیاورید. اولین شرط موفقیت این است که به طرزی خستگی ناپذیر و پیوسته انرژی جسمانی و ذهنی خود را روی یک مسئله متمركز سازید. توماس ادیسون دنیا پر از مردمی است که منتظرند کسی پیدا شود و به آنها انگیزه بدهد تا به آن کسی که دوست دارند باشند تبدیل بشوند. اشکال اینجاست که کسی برای نجات نمیآید. این اشخاص منتظر رسیدن اتوبوسی در خیابان هستند که اصولا از آن اتوبوسی حرکت نمی کند. در نتیجه اگر این افراد سررشته امور زندگی خود را به دست نگیرند، ممکن است عمری را در انتظار باقی بمانند و این کاری است که اغلب مردم می کنند. تنها دو درصد اشخاص می بدون نظارت و سرپرستی کارشان را انجام دهند. ما این افراد را رهبران می‌نامیم. و ما می‌خواهیم شما هم در شمار همین اشخاص قرار بگیرید. وظیفه شما این است که عادت کنید فشارها را روی خودتان بگذارید و منتظر نباشید کسی پیدا شود تا کارهایتان را به جای خود شما انجام بدهد. شما باید قورباغه‌های خودتان را پیدا کنید و بعد به ترتیب اهمیت آنها را بخورید. استانداردی که برای کار و رفتار خودتان تعیین می‌کنید باید بالاتر از هر استانداردی باشد که دیگران برای شما تعیین می‌کنند. با خودتان قرار بگذارید کمی زودتر کارتان را شروع کنید، کمی بیشتر کار کنید و کمی بیشتر سر کارتان باقی بمانید. همیشه مترسدان باشید که آن یک مایل بیشتر و اضافی را بپیمایید، بیش از آن حدی که به شما پول میدهند، کار کنید. عزت نفس شما؟ جوهر شخصیت شما را ناتانیل براندن روانشناس آبرو و اشتهار شما در نزد خودتان تعریف کرده است با هر کاری که میکنید یا نمی کنید روی این اشتهار خود تاثیر میگذارید جالب اینجاست وقتی به خود فشار میآورید و کار بیشتری صورت میدهید درباره خود احساسی عالی پیدا میکنید زربال های خیالی در نظر بگیرید <تصفح> یکی از بهترین راه های غلبه بر امروز و فردا کردن این است که فرض را بر این بگذارید تنها یک روز فرصت دارید مهمترین کارتان را انجام بدهید تصور کنید که همه روزه پیامی استراری دریافت کرده اید و از فردا باید به مدت یک ماه شهر را ترک کنید اگر مجبور بودید به مدت یک ماه شهر را ترک کنید، قبل از این کار چه می کردید؟ این کار هرچه هست، از همین حالا دست به کار شوید و آن را انجام بدهید. تصور کنید همین حالا پیام دعوتی دریافت می کنید که در آن آمده است، می توانید به مرخصی و سفر بروید و همه هزینه های شما را هم می پردازند. اما یا باید فردا صبح این سفر را شروع کنید یا دعوت را از شما پس میگیرند و آن را به شخص دیگری میدهند. برای اینکه سفرتان را شروع کنید کدام کار است که باید آن را تمام کنید. این کار هرچه هست بلا فاصله آن را انجام بدهید. اشخاص موفق پیوسته برای رسیدن به مدارج بالاتر به خودشان فشار میآورند. اشخاص ناموفق هم کسانی هستند که پیوسته به فشار از ناحیه دیگران احتیاج دارند. با فشار آوردن به خود کارهایتان را بیشتر و بهتر انجام می دهید. سریعتر از قبل انجام می دهید، تبدیل به شخصی با عمل کرده بالا میشوید، به شخصی موفق تبدیل می گردید، درباره خودتان احساسی عالی پیدا می کنید و اندک اندک عادت می کنید که کارهایتان را انجام بدهید و این سببی می گردد تا در همه ایام زندگیتان به خود خدمت کنید مورباقه باقرا بخورید یک برای هر کاری که انجام می دهید، زمان پایانی مشخص کنید سیستم نیروی مجبور کننده خود را ایجاد کنید از خودتان انتظار انجام دادن کارهای بیشتری داشته باشید. وقتی زربالعجری برای تمام کردن کارهایتان تعیین می کنید به آن بچسبید و سعی کنید که کارتان را در این فاصله تمام کنید دو مراحل اجرای همه کارهای مهمتان را یادداشت کنید و بعد به این نتیجه برسید برای انجام دادن هر مرحله از این کار به چند دقیقه وقت و چند ساعت کار احتیاج دارید حالا با زمان خود مسابقه بدهید سعی کنید از ضرب الاجل‌های خود جلو بزنید احساس کنید در مسابقه‌ای شرکت کرده اید و قصد دارید در آن به پیروزی برسید توانمندی‌های خود را به حد اکثر برسانید منابع خود را جمع کنید از تمام توانمندی‌های ذهنی خود استفاده کنید انرژی های خود را هدایت کنید و تمام قابلیت را برای احاطه بر دست کم یک زمینی تلاش متمرکز سازید جان هگای مواد خام عملکرد شخصی و بهرهوری شما در انرژی جسمانی، ذهنی و احساسی شما نهفته است. یکی از مهمترین لازمه های شاد و مولد بودن این است که در تمام اوقات از انرژی خود استفاده مطلوب بکنید. بدن شما شبیه ماشینی است که غذا و آب مصرف می کند و به استراحت نیاز دارد تا تولید انرژی کند، و شما از این انرژی برای انجام دادن وظائف و کارهای مهم زندگی و کارتان استفاده کنید وقتی به اندازه کافی استراحت کردید در مقایسه با زمانی که خسته اید توانید دو برابر، سه برابر و حتی پنج برابر کار انجام بدهید. یکی از مهمترین لازمه های شاد و مولد بودن این است که بر میزان انرژی خود بیافزایید. کار بیش از اندازه از بهرهوری میکاهد قاعدش این است که میزان بهرهوری و اثر بخشی شما بعد از هشت یا نه ساعت کار کاهش می به بدین منظور ساعت طولانی کار تا پاسی از شب گذشته گرچه در مواقعی ضرورت دارد به معناست من است که در زمان بیشتر کار کمتر و باز هم کمتری صورت میدهید هرچه بیشتر خسته بشوید، کارتان خرابتر می شود و اشتباهات بیشتری صورت می دهید. بعد به ای می رسید که مانند یک باتری که نیرویش کاهش یافته به دیوار برخورد می کنید و بعد خیلی ساده نمی توانید ادامه بدهید. به سرعت مناسب خود کار کنید واقعیت این است که طی روز زمان معین و مشخصی دارید. در این زمان می توانید در حد اکثر توانمندی خود ظاهر شوید لازم است که این زمان را شناسایی کنید و در خود نظم و ترتیبی به وجود آورید که از این زمان برای انجام دادن مهمترین کارهای خود استفاده نمایید اغلب اشخاص در صبح اول وقت و پس از خواب خوبی در شب در بهترین شرایط خود به سر می برند اما بعضی ها هم در بعد از زورها بهتر هستند معدودی هم در شبها بهتر و خلاقتر ظاهر می شوند. یکی از دلایل اصلی مسامحه کردن خستگی است. ممکن است بخواهید وقتی خسته هستید دست به کار شوید. در این زمان انرژی و اشتیاقی در شما باقی نمانده است. مانند یک موتور سرد در صبح نمی به خوبی شروع کنید. هرگاه احساس خستگی بیش از اندازه می‌کنید و از این همه کاری که باید انجام بدهید کلافه هستید و وقت هم بسیار تنگ است لحظه‌ای توقف کنید و بگویید این بیشترین کاری است که می توانم انجام بدم گاه بهترین طرز استفاده از زمان این است که زود به خانه بروید به خواب بروید و ده ساعت بخوابید این میتواند شما را به طور کامل از نو no شارژ کند و به شما امکان بدهد که روز بعد دو تا سه برابر کار کنید. کیفیت کارتان هم بهتر میشود. به, به اندازه کافی بخوابید. با استناد به بسیاری از تحقیقات، امریکاییان به طور متوسط در مقایسه با کاری که میکنند به اندازه کافی نمیخابند، میلیون ها امریکایی در شرایط ذهن محالود کار می کنند که دلیلش کار زیاد و خواب کم است یکی از جالبترین کارهایی که می توانید بکنید این است که تلویزیون را خاموش کنید و در تمام ایام کاری هفته ساعت ده به رخت خواب بروید گاه یک ساعت خواب بیشتر در شب می زندگی شما را به کلی تغییر دهد. در اینجا به قاعده ای می رسیم. در هر هفته یک روز را به طور کامل کار نکنید. در این روز که اصولا باید یکی از روزهای تعطیل آخر هفته باشد، نه چیزی بخوانید و نه کاری را در ارتباط با دفتر کارتان انجام بدهید. بگذارید که مغز شما کاملا استراحت کند. به جای کار کردن به سینما بروید، ورزش کنید، با خانواده خود صرف وقت نمایید. پیاده روی کنید و یا در هر فعالیتی مشغول شوید که به مغزتان امکان بدهد خودش را از نو شارش کند. توجه داشته باشید که تغییر به خوبی استراحت کردن است. همثاله به طور منظم از فرصت مرخصی استفاده کنید. یکی دو هفتهی به خود استراحت بدهید و تجدید قوا کنید. بیشترین توانمندی شما بعد از روزهای تعطیل آخر هفته، یا رفتن به مرخصی و تعطیلات است هفته پنج شب زود خوابیدن، در تعطیلات آخر هفته خوابیدن و هفته یک روز بدون کار را سپری کردن به شما انرژی به مراتب بیشتری میدهد این انرژی اضافه شده به شما امکان می دهد تا بر مسامه کاری های خود غلبه کنید و با عزمی راسختر از همیشه با سرعتی بیشتر به کارتان بپردازید سلامتی خود حراست کنید علاوه بر این برای اینکه سطوح انرژی شما در بالاترین سطح خود قرار بگیرند مراقب غذا خوردنتان باشید روز را با یک صبحانه ی سرشار از پروتئین کم چرب و با غند کم شروع کنید برای نهار ماهی مرغ و سالات بخورید از خوردن شیرینی، نمک، فراورده‌های های سبوس گرفته تا انواع دسرها خودداری ورزید. نوشابه های گازدار، شیرینی و نان شیرین نخورید. طوری غذا بخورید که انگار یک ورزشکار در سطح جهان هستید و قرار است مسابقه بدهید. شما قبل از شروع کار در صبح در حکم همین قهرمان هستید. تصمیم بگیرید که هفتهی دویست دقیقه ورزش کنید. این کار به آمادگی جسمانی شما کمک می کند. به عبارت دیگر باید روزی سی دقیقه ورزش کنید می در صورت امکان صبحا پیاده به سر کار خود بروید و یا طی روز کمی راه بروید می شنا کنید ورزش کردن را در برنامه های همه روزی خود قرار دهید با خوردن غذاهای کمچرب و سالم با ورزش کردن منظم و استراحت فراوان کارتان را بهتر و ساده‌تر انجام می دهید و در مقایسه با گذشته به رضایت خاطر بیشتری می رسید. هرچه در زمان شروع کار احساس بهتری داشته باشید، کمتر مسامحه و دفع الوقت می کنید و اشتیاق بیشتری برای انجام دادن کارها پیدا می کنید و بهتر می به سایر وظایف خود برسید. سطح انرژی زیاد برای بارآوری و بهرهوری و شادی و سعادت بیشتر ضروری هستند. اینگونه می توانید در هر کاری که میکنید به موفقیت سطح بالاتری برسید. بود باعث آب میزان انرژی خود و نیز عادات سلامت روزانهتان را تحلیل کنید. از امروز مصمم شوید که بر سطح سلامتی و انرژی خود با طرح این پرسش‌ها بی افسایید. کدام فعالیت فیزیکی خود, با <finds någotperohi> خود را, باید باید را باید افزایش بدهم؟ کدام también… کار را باید کمتر انجام بدهم؟ کدام کار است که آن را انجام نمی‌دهم، اگر بخواهم در بهترین حد خود قرار بگیرم باید آن را انجام بدهم؟ کدام کار امروز من روی تاثیر که باید آن را به کلی رها کنم. یک فعالیت یا رفتاری را انتخاب کنید که میتوانید برای رسیدن به سلامتی و انرژی بیشتر از آن استفاده کنید این فعالیت را بارها و بارها تکرار کنید تا به آن عادت نمایید. بعد راه دومی برای بهبود خود پیدا پاسخ شما به این سالات هرچه باشد از همین امروز دست شوید برای کار بیشتر به خودتان انگیزه بدهید. تن دادن به ماجراهای بزرگ و تلاش برای پیروزی و اقدام خلاق است که انسان را نشاط فراوان می‌بخشد. آنتونی دوسن اگزوپری برای اینکه در بهترین حد خود ظاهر شوید باید شخصا به خود انگیزه بدهید. باید بتوانید مربی خودتان باشید. باید خودتان را تشویق کنید که در سکوی اول مسابقه قرار بگیرید. اغلب احساسات مثبت یا منفی بستگی به این دارد که دقیقه به دقیقه با خود چگونه صحبت می کنید. مهم این نیست که برای شما چه اتفاقی میافتد؟ بلکه تفسیر شما از حوادثی که برایتان رخ میدهد احساس شما را تعیین می کند. برداشت شما از حوادث است که به شما انگیزه می دهد یا انگیزه شما را می گیرد. به شما انرژی می دهد یا انرژی شما را می گیرد. برای اینکه به خودتان انگیزه بدهید، باید یک خوشبین به تمام معنا باشید. باید تصمیم بگیرید که به کلمات، اعمال و رفتار و واکنش های اشخاص و شرایط واقع در پیرامون خود پاسخ مثبت بدهید. نباید بگذارید که مشکلات غیرقابل قابل و مشکلات زندگی روزانه روی روحیه و احساسات شما تأثیر بگذارد. گفتگوهای درون خود را کنترل کنید. میزان عزت نفس شما، اینکه خودتان را چقدر دوست دارید و چقدر به خودتان احترام می‌گذارید روی انگیزه و پشتکار و مداومت شما تاثیر می‌گذارد برای اینکه به عزت نفس بالاتری دست پیدا کنید باید با خود مثبت صحبت کنید مثلا بگویید خودم را دوست دارم آنقدر این حرف را بزنید تا اینکه حرفتان را باور کنید و به گونه ای رفتار نمایید که انگار شخصیتی با عمل عالی هستید. برای انگیزه دادن به خود و برای غلبه بر احساس تردید و حراس پیوسته به خود بگویید میتوانم این کار را بکنم. میتوانم این کار را بکنم. وقتی اشخاص حالتان را میپرسند همیشه بگویید عالی هستم. بدون توجه به اینکه در لحظه چه فکری می کنید بدون توجه به اتفاقی که در زندگی شما می افتد تصمیم بگیرید که خندان و با نشات باقی بمانید همانطور که ویکتور فرانکل در کتاب پرفروش انسان در جستجوی معنا می گوید انسان آزاد است که در هر شرایطی یک انتخاب کننده باشد. گفتند که هرگز مسائل خود را با دیگران در میان نگذارید زیرا 80 درصد اشخاص علاقه ای به مسائل شما ندارند و 20 درصد هم به نوعی از اینکه مسئله و گرفتاری دارید خوشحال میشوند. نگرش ذهنی مثبت را در خود ایجاد کنید. مارتین سلیگمن پس از 22 سال بررسی در دانشگاه پنسیلوانیا در کتاب خوشبینی فرا گرفته شده می نویسد خوشبینی مهمترین است که برای رسیدن به موفقیت در زندگی شخصی و شغلی می توانید آن را در خود پرورش دهید. به نظر میرسد رسد که خوشبین ها از سه رفتار ویژه پیروی می کنند که همه آنها را با تمرین و تکرار یاد گرفتند. اول این که ها در هر کاری به جنبه های مثبت آن توجه دارند بدون توجه به اینکه اشکالات کدامند همیشه به جنبه های خوب و سودمند نظر دارند و به نظر میرسد همیشه آن را پیدا میکنند دوم خوشبین ها در هر مشکلی درسی ارزشمند را جستجو میکنند آنها معتقدند که مشکلات و گرفتاری ها محدود کننده نیستند بلکه آموزنده هستند به اعتقاد آنها هر مانعی درسی ارزشمند در خود دارد که میتوان آن را آموخت و رشد کرد. سوم خوشبینها برای هر مشکلی که با آن روبرو شوند دنبال راه حل میگردند. آنها به جای اینکه در معرض مسائل و مشکلات شکایت یا سرزنش کنند عملگرا میشوند. آنها از خود میپرسند راه حل کدام است؟ حالا چه میتوانیم بکنیم؟ کار بعدی کدام است؟ علاوه بر این، اشخاصی که عادتاً خوشبین و مثبت هستند، پیوسته درباره ی هدفهایشان حرف میزنند. آنها به آینده میاندیشند و در این خصوص حرف میزنند. کاری به این ندارند که در گذشته در کجا بودند و از کجا آمدند. آنها همیشه به جلو و آینده نگاه میکنند. وقتی پیوسته هدفهایتان را مجسم سازید، وقتی به ایده‌آل‌هایتان فکر کنید و به طرزی مثبت با خود سخن بگویید، انرژی و تمرکز بیشتری پیدا می کنید، مطمئنتر و خلاق‌تر میشوید. احساس کنترل و قدرت شخصی بیشتری پیدا می کنید. هرچه مصبتن دیشتر باشید و احساس انگیزه بیشتری بکنید، با اشتیاق بیشتری شروع می کنید. و با عزم جزتری به راه خود ادامه می دهید گرباغه را بخورید یک، افکارتان را کنترل کنید به خاطر داشته باشید به هر هرچه فکر کنید به آن میرسید دقت کنید به آن چیزهایی که میخواهید فکر کنید و به آن چیزهایی که نمیخواهید فکر نکنید دو، مصبتندیش باشید مسئولیت کامل در قبال خود و آنچه را که برایتان اتفاق میافتد بپذیرید دیگران را هرگز سرزنش نکنید آنها را مورد انتقاد قرار ندهید سعی کنید به جای بهانه آوردن کنید اندیشه ها و انرژی خود را متوجه آینده کنید ببینید چه می توانید بکنید که زندگیتان بهتر شود و بقیه را فراموش کنید مقهور تکنولوژی نشوید زندگی چیزی بیش از سرعت دادن به آن است گاندی تکنولوژی می تواند بهترین دوست یا بدترین دشمن شما باشد در حالی که با شتاب به قرن بیست و یکم پا گذاشته ایم و از همه سمت بمباران اطلاعاتی می شویم بسیاری از اشخاص در زندگی شخصی و تجاری خود نیازی مبرم و اگر نگوییم وسواس به برقراری ارتباط با دیگران احساس می کنند. این استرار در برقراری ارتباط دائم استفاده بی وقفه از تلفن همراه، تلفن کامپیوتری بلکبری، اینترنت، با سیم یا بی سیم، و سیستم های مختلف برقراری ارتباط، نرمفزار های مایکروسافت و ماکسیمایزر به لحاظ روانی نفس همه را گرفته است. فرصتی برای توقف و بو کردن گلها و متمرکز ساختن اندیشه باقی نمانده است. شما امکان انتخاب دارید همزمان با این تحولات بسیاری از تلاشگران و اشخاص به شدت مولد و کارآمد در ارسی تکنولوژی ارتباطات مقهور تکنولوژی نشدند و به نظر میرسد کنترل زندگی خود را در دست دارند. بیلگراس، مردی که بر 600 میلیارد دلار وجوه درآمد ثابت و اوراق بهادار مدیریت می کند، به این شهرت دارد که همه روز ورزش و مراقبه می کند تا فارغ البال از تکنولوژی هشیار و متمرکز باقی بماند. او تلفن‌های خود را از مدار خارج می کند، تلفن کامپیوتری بلکبری خودش را در دفتر کارش میگذارد تا رها از مزاحمت کسانی که میخواهند پیوسته با او در تماس باشند ورزش کند. Sorry, با این حال او میگوید هرگز اتفاق نمی افتد که پیام های مهم را دریافت نکند شما هم برای حفظ آرامش خود و برای اینکه ذهن روشن داشته باشید و بتوانید در بهترین شرایط خود ظاهر شوید باید به طور منظم از تکنولوژی و ابزار ارتباطی فاصله بگیرید و بدانید اگر دقت نکنید تحت تاثیر این رسانه های ارتباطی فلج می شوید. مقتدر نشوید چندی پیش در واشنگتن در اتاقی پر از مقامات و مدیران برجسته ناهار میخوردم قبل از صرف ناهار یکی از برگزارکنندگان جلسه از جای خود بلند شد و نیایشی کرد همه سرشان را به علامت تعظیم فرود آوردند و صرف ناهار شروع شد اما از جمع هشت نفری که سر یک میز نشسته بودند، به نظر می رسید که چهار یا پنج نفر به شدت تحت تأثیر نیایش قرار گرفتند. حتی وقتی غذا سرو می شد، سرهایشان را به پایین خم کرده و دستهایشان را روی دامانشان گذاشته بودند و به نظر می رسید تحت تأثیر مسائل روز غرق در اندیشه شدهاند. اما معلوم شد که نیایش نمی کنند. همه آنها با تلفن کامپیوتری بلکبری خود درگیر بودند. نامه الکترونیکی میفرستادند و دریافت میکردند. مانند نوجوانهای هیجان زده بازیهای کامپیوتری میکردند. آنها در دنیای پیرامون خود گم شده بودند. با اشخاص حاضر در همان اتاق پیام رد و بدل میکردند. آنها اسیر دام فناوری بودند. در اقیانوس مبادله اطلاعات قوطور بودند. تکنولوژی دوست شماست هدف تکنولوژی نوین تا حدود زیاد افزودن بر سرعت، کارایی و دقت در انتقال انواع اطلاعات است. تکنولوژی ابزاری در اختیار ماست، تا بر کیفیت زندگی خود بیافزاییم و بتوانیم وظایف خود را بهتر انجام بدهیم و با اشخاص مهم و کلیدی دنیایمان سریعتر و با کارایی بیشتر در ارتباط باشیم. اما استفاده از فناوری ارتباطی میتواند خیلی زود تبدیل به یک اعتیاد شود. اشخاص صبح از خواب بیدار میشوند و بلافاصله به سر وقت تلفن همراه خود میروند تا بدانند آیا کسی با آنها تماس گرفته یا برایشان پیامی گذاشته است بعد به شتاب به سراغ کامپیوتر میروند و به نام های الکترونیکی خود مراجعه می کنند تا بدانند طی شب گذشته کسی برایشان پیامی فرستاده است با دفترشان تماس میگیرند تا بدانند آیا کسی در چند ساعت گذشته کاری کرده یا حرفی زده که آنها باید از آن مطلع باشند. بعد از آن هم هر پنج یا شش دقیقه یک بار به سراغ نرمافزار مایکروسافت، آوتلوک و دستگاه بلکبری می روند تا مطمئن شوند چیزی را از دست نداده باشند. قبل از اینکه همه چیز از کنترل خارج شود، این کار را متوقف سازید. زمان خود را باس پس بگیرید. یکی از مراجعان من که در 19 ایالت توضیح کننده دارد، به این نتیجه رسید که روزانه چندین ساعت از اوقات خود را صرف مرور نامه های الکترونیکی می کند. هرچه او زمان بیشتری را صرف کامپیوتر میکرد، شماره شمار کمتری از کارهای مهم و ضروریش انجام میشدند. استرس ناشی از این کارهای انجام نشده روی شخصیت، سلامتی و خواب او تأثیر گذاشته بودند. قانون 80 به 20 را به او یادآور شدیم و توضیح دادیم که چگونه می تواند از این اصل در رسیدگی به نامه های الکترونیکیش استفاده کند. 80 درصد نامه های دریافتی او هیچ ارزشی نداشتند و حتی نیازی به باز کردن آنها وجود نداشت. اینها بلافاصله باید حذف می شدند. از جمع 20 درصد باقی مانده. تنها 20 درصد و یا به عبارتی 4 درصد کل نامه‌های دریافت شده به شکلی مهم بودند که باید در ارتباط با آنها اقدامی صورت می‌گرفت. 16 درصد بقیه از ماهیتی برخوردار بودند که میشد آنها را موقتاً نادیده گرفت و رسیدگی به آنها را به وقت مناسبی موکول کرد. استاندارد کردن و واگذار نمودن مراجع من معتقد بود کسی جز خود او نمیتواند به نامه های الکترونیکی دریافتی که به سیصد مورد در روز بالغ می شد رسیدگی کند معتقد بود این صرفاً کار خود اوست و در این میان به این توجه نداشت که این کار چه زمانی از وقت او را میگیرد او را تشویق کردیم که به اتفاق منشیاش نامه ها را مرور کند باید به منشیش می گفت کدام نامه ضروری و کدام غیر ضروری است باید به او می گفت که با ترین سوالات و درخواستها چگونه روبرو شود در میان شگفتی او در مدت دو سال منشیش در موقعیت قرار گرفت که اکثر نامه های او را بررسی کند از آن به بعد منشی او همه روز صبحها 80 درصد نامه های دریافتی را که فاقد ارزش بودند حذف میکرد و بعد نامه هایی را که به جواب او احتیاج داشتند در پرونده دیگری قرار میداد. در جلسه ملاقات بعدی، او گفت با روش جدیدی که اتخاذ کرده هفته ای 23 ساعت در اوقات خود صرف جوی می میکند و می تواند از این فرصت برای انجام دادن مهمترین کارهایش استفاده کند این اقدام جدید زندگی او را متحول ساخت از میزان استرس او کاست بر نیرو و سلامتیش افزود و شرایطی فراهم ساخت که از آرامش بیشتری برخوردار شود و در ضمن کار بیشتری صورت دهد در اینجا از شما میپرسم اگر هفته 23 ساعت فرصت بیشتر می داشتید چه تحولی در زندگی شما صورت خارجی پیدا میکرد آیا نمیتوانستید از این فرصت برای فکر کردن کار کردن برنامه ریزی، صحبت با همکاران و یا حتی قدم زدن به اتفاق همسرتان استفاده کنید تن به بندگی ندهید یکی از روزنامه نگاران مجلی فرچون اخیرا نوشت وقتی بعد از دو هفته مرخصی به دفترش بازگشت متوجه شد که هفتصد نامه الکترونیکی برای او رسیده است. جواب دادن به این نامه ها یک هفته وقت او را می گرفت و در این زمان نمی توانست به کارهایی که باید انجام می رسیدگی کند. او برای اولین بار طی زندگیش نفس راحتی کشید، دکمه حذف را فشار داد و آن هفتصد نامه را برای همیشه پاک کرد. با این اقدام فرصتی به دست آورد که کارهای مهمی را که باید انجام میشدند، انجام دهد. او برای این کارش توضیح ساده ای داشت. به این نتیجه رسیدم وقتی کسی برایم نامه الکترونیکی میفرستد، معنایش این نیست که صاحب بخشی از فرصت من میشود. بدین معنا نیست که مرا مجبور می کند به او جواب بدهم. بعد به فکرم رسید اگر نامه دریافتی بسیار مهم باشد فرستنده بار دیگر آن را مخابره می کند و این دقیقا اتفاق افتاد. خدمت گذار، نه ااراق. برای اینکه بتوانید روی آن معدود کارهایی که بیشترین تأثیر را بر شما یا زندگی شخصی شما می‌گذارند متمرکز شوید، باید تکنولوژی را نه به عنوان ارباب، بلکه به عنوان خدمتگذار خود در نظر بگیرید. تکنولوژی برای کمک به شماست، نه اینکه شما را از کارهایی که دارید باز بدارد. هدف تکنولوژی این است که زندگی شما را هموارتر کند نه اینکه بر پیچیدگی، ابهام و استرس آن بیافزاید. یکی از بهترین روش های برخورد با تکنولوژی این است که آن را خاموش نگه دارید. در برابر این اغوا وسوسه نشوید که به محض بیدار شدن از خواب در صبح اول وقت به سروقت آن بروید. رادیو را روشن نکنید. تلویزیون را روشن نکنید. تلفن همراهتان را خاموش نگه دارید تا زمانی که روزتان را برنامه ریزی نکرده اید کامپیوترتان را روشن نکنید بکوشید که دقایقی سکوت بر زندگی شما حاکم شود و در این سکوت چیزی نتواند مزاحم و مخل زندگی شما شود به زندگی خود آرامش ببخشید دقایقی به سکوت گوش فرا دهید گاه برای انجام دادن کارهای ارزشمندتر باید از انجام دادن کارهای کم ارزش خودداری ورزید. مرتب از خود بپرسید مهم چه کاری است. برای اینکه به نتیجه مطلوب برسید چه اقدامی باید صورت بدهید. اگر قرار باشد بتوانید یک یا دو کاری را که پیش رویتان قرار دارد انجام بدهید، این دو چه کاری میتوانند باشند؟ تماس پیوسته ضرورت ندارد به خاطر داشته باشید وقتی یک روز، یک هفته یا یک ماه به مرخصی می روید و از دستگاه های ارتباطی فاصله می گیرید, هیچ اتفاقی نمی افتد. شما با دنیا در تماس باشید یا نباشید کار آن قوام می گیرد. مسائل حل می شوند. جوابها به دست می آیند، کارها انجام می شوند و زندگی جریان عادی خود را طی می کند. به ندرت کارهایی پیدا می شوند که انجام دادنشان از استرار برخوردار باشد. به ندرت کارهایی پیدا می شوند که نتوان آنها را در نوبت انتظار گذاشت. اشخاص اغلب در همایش هایم میپرسند مگر نباید با خواندن روزنامه ها، گوش دادن به رادیو و نگاه کردن به تلویزیون در جریان اخبار روز قرار بگیرم. به آنها می گویم، اگر خبر به مهمی وجود داشته باشد کسی آن را با شما در میان میگذارد. اگر در خانه، محل کار، کشور یا دنیا اتفاق مهمی بیفتد، کسان دیگری میتوانند به جای شما به آنها توجه کنند. بسیاری از مردم اشتراک خود را برای دریافت روزنامهها قطع میکنند. از تماشای برنامههای خبری تلویزیون خودداری میکنند. به رادیو هم گوش نمی دهند و با این حال در جریان مهمترین حوادث و اخبار دنیا قرار میگیرند. همیشه کسی هست که خبرها را با آنها در میان بگذارد. شما هم باید همین کار را بکنید. خور باقره را بخورید یک yeah. از امروز مصمم شوید که در جریان فعالیت‌های روزانه خود در شرایط سکوت قرار بگیرید. همه دستگاه‌های مخابراتی و تکنولوژی در این زمینه را به مدت یک ساعت در صبحها و یک ساعت در بعد از ظهرها خاموش کنید. از اتفاقی که میافتد حیرت میکنید. هیچ اتفاقی نمیافتد. دو، مصمم شوید هفته یک روز دست به کامپیوتر خود نزنید. با دنیای تکنولوژی مخابراتی در تماس نشود. در پایان این روز ذهنی آرام پیدا می کنید به باتری ذهنتان فرصتی می دهید که دوباره شارژ شود بدون مزاحمت پیوسته دستگاه های ارتباطی در آرامش بیشتری قرار می گیرید خوشیارتر و گوش به زنگتر می شبید. کار را به اجزای کوچکتری تقسیم کنید شروع هر عادت شبیه به یک نخ نامرئی است اما هر بار که عمل خود را تکرار می کنیم تاری بر این نخ اضافه می کنیم تا اینکه به تناب کلوفتی تبدیل می شود و به دور اندیشه و عمل ما می پیچد اوریسون سویت ماردن یکی از دلایل عمده به بعد موقول کردن انجام دادن کارهای بزرگ و مهم این است که این کارها بسیار عظیم و حولنگیز به نظر می رسند. یکی از روشهای تقسیم کار بزرگ به اجزای کوچکتر روش برش سلامی است. به کمک این روش، جزئیات انجام دادن کار را در نظر می گیرید و بعد تصمیم میگیرید که در هر زمان و لحظه جزئی از آن کار را انجام بدهید. درست مانند که یک سلامی بزرگ را برش می دهید و هر تکه را لقمه لقم میخورید. به لحاظ روانی، وقتی کاری را به اجزای مختلف تقسیم می کنید، به راحتی بیشتری می آن را انجام بدهید. و این در حالی است که پرداختن به یک کار بزرگ دشوار است. وقتی با اجزا شروع می‌کنید، دیری نمی‌گذرد که همه کار یکجا جا تمام می‌شود. میل تمام کردن تمام کار, کار را در خود ایجاد کنید. هر کس در درون خود میل به انجام دادن و تکمیل کردن دارد. بدین مفهوم که وقتی کاری را انجام می دهید به احساسی از رضایت خاطر می رسید. این احساس رضایت سبب می شود که با انجام دادن و تکمیل کردن هر بخش از کار بخش بعدی را شروع کنید و سرانجام به رضایت خاطر برسید. هرچه کار مهمتر و بیشتری انجام دهید احساس وجد در شما افزایش می یابد. هرچه چه بزرگتری را بخورید، انرژی بیشتری احساس می‌کنید. وقتی جزء کوچکی از کار را شروع و آن را به انتها می‌رسانید، انگیزه پیدا می‌کنید تا جزء بعدی را شروع کنید. با تمام کردن جزء بعدی هم به سراغ جزء سوم می‌روید. هر قدم کوچکی که برمیدارید دارید، به شما انرژی می‌دهد. اینگونه در شرایطی قرار میگیرید که همه کار را تمام کنید. روش, روش پنیر, پنیر سویسی. سویسی روش دیگری که می توانید از آن برای انجام دادن کارهایتان استفاده کنید، روش پنیر سوئیسی در زمینه کار کردن است. در این روش سوراخی در کار ایجاد می کنید. درست مانند سوراخی که در یک نقطه پنیر سویسی وجود دارد. موضوع به این قرار است که پنج تا ده دقیقه روی پروژهی کار می کنید و بعد آن را رها می و کار دیگری صورت می دهید. به عبارت دیگر یک گاز به قورباغه می زنید و بعد استراحت می کنید و یا به سروقت کار دیگری می روید. قدرت و تأثیر این روش هم مشابه روش برش سالامی است. پس از آنکه کارتان را شروع کردید به احساسی از رضایت و خوشنودی دست پیدا می کنید. انرژی میگیرید و به هیجان میآیید انگیزهای درونی پیدا می کنید و تشویق میشوید. آنقدر به کارتان ادامه بدهید تا آن را به انتها برسانید. باید از روش برش سلامی یا پنیر سوئیسی وقتی کار یا پروژه بسیار بزرگ است استفاده نمایید. استفاده از این روش ها در این موارد خاص مانع از آن می شود که اقدام به مصاحه کاری و امروز و فردا کردن بکنید من دوستان فراوانی دارم که تصمیم گرفتند روزی یک صفحه یا حتی یک پاراگراف بنویسند و بعد در شمار پرفروشترین نویسندگان قرار گرفتند. قرباقه را بخورید یک بلافاصله از این روش ها استفاده کنید کار بزرگ و سنگینی را به روش برش سالامی یا پنیر سوئیسی به اجزای کوچکتری تقسیم کنید دو یکی از رموز موفقیت انسان‌های موفق این است که عملگرا هستند وقتی این اشخاص ایده خوبی میشنوند بلافاصله روی آن کاری صورت می‌دهند تا بدانند آیا این روش مؤثر واقع می‌شود یا نمی‌شود کر نکنید. همین امروز امتحان کنید. برای هر کاری زمانی در نظر بگیرید. کاری بیشتر از تمرکز انرژی روی هدف‌های محدود به زندگی شما قدرت نمیبخشد نیدو کوین راهکار در نظر گرفتن فرصت زیاد برای انجام دادن کارها مستلزم آن است که با خود عهد کنید در زمانهای تعیین شده روی کارهای بزرگ کار کنید بخش اعظم کارهای مهمی که انجام می دهید نیازمند زمان بیوقفی طولانی است این می تواند به کار و زندگی شما کمک فراوان بکند. فروشندگان موقت همه روز فرصتی را صرف تلفن کردن می کنند. به جای اینکه کارهایی را که آنقدرها دوست ندارند تعویق بیندازند، تصمیم میگیرند گیرند که یک ساعت کامل با مشتریان خود صحبت کنند و مثلا ساعت ده تا یازده صبح را برای این کار در نظر می گیرند. و بعد به کارشان نظم و ترتیبی میدهند که طبقه برنامه ریزی از قبل کار کنند. بسیاری از مدیران تراز بالا و بلند پایه زمان معینی را با مشتریان خود تماس میگیرند تا مستقیما از نظرات آنها آگاه شوند. بعضیها هم روزه سی تا شست دقیقه وقت خود را صرف ورزش می کنند. زمان هر کار را در نظر بگیرید کلید موفقیت در این شیوه کار کردن در فواصل زمانی مشخص این است که روز خودتان را از قبل برنامه ریزی کنید و برای هر بخش از کارتان زمانی را در نظر بگیرید. با خودتان درباره تخصیص زمانی برای هر کار به توافق می رسید و بعد به نظم و ترتیبی تن می دهید که طبق برنامه رفتار کنید. بسیاری از اشخاص به شدت موفق برای هر زمانی کاری را در نظر می گیرند و معمولاً در هر زمان تعیین شده تنها یک کار را انجام می دهند اینگونه بر کارایی و بهرهوری آنها افزوده می شود و در مقایسه با متوسط مردم دو، سه و یا پنج برابر کار بیشتری صورت می دهند از برنامه ریزی زمان استفاده کنید برنامه ریزی روز و مشخص کردن ساعتها و دقایق مربوط به کار به شما امکان می تا فرصتی را برای انجام دادن کارهای متمرکز فراهم آورید. در زمان انجام دادن کار، تلویزیون را خاموش کنید، کاری کنید که مزاحمی نداشته باشید و بعد بدون وقفه کار کنید. یکی از بهترین عادتهای کاری این است که صبح زود از خواب بیدار شوید، و چند ساعتی در صبح در خانه کار کنید در مقایسه با دفتر شلوغ در خانه می توانید با کارایی سه برابر کار کنید به دقایق توجه کنید وقتی به مسافرت تجاری می روید می توانید از قبل درباره انجام دادن کارها در ضمن سفر برنامه ریزی کنید وقتی هواپیما از زمین بلند می شود، می توانید در تمام مدت پرواز کار کنید. وقتی بیوقفه در هواپیما کار می کنید، به نتایجی دست پیدا می کنید که خودتان هم آن را باور نمی کنید. یکی از کلیدهای رسیدن به عمل کرد و تولید سطح بالا این است که روی هر دقیقه از اوقات خود حسابی باز کنید. از اوقات مسافرت، از وقتی که در سالن‌های ترانزیت صرف می‌کنید برای انجام دادن کارهایی که به وقت کمتری احتیاج دارند استفاده کنید. به خاطر داشته باشید برای ساختن اهرام سلاسه یکی یکی سنگ‌ها را روی هم گذاشتند. کارهای بزرگ جملگی مرحله به مرحله انجام می‌شوند. وظیفه شما در کار مدیریت زمان این است که برای تمام کارهای اصولی خود وقت و فرصت مشخصی در نظر بگیرید و همه کارهایتان را طبق برنامه انجام بدهید. باغه را بخورید <تصفيق> یک پیوسته به راههایی فکر کنید که بتوانید کارهایتان را برنامه ریزی کنید و برای هر کار فرصتی را در نظر بگیرید از اوقات خود برای انجام دادن مهمترین کارهای خود استفاده کنید دو از دقایق زندگی خود استفاده کنید پیوسته و ادامه دار کار کنید اجازه ندهید کسی یا کاری مخل برنامه ریزی شما شود و از همه اینها گذشته به مهمترین نتایجی که در قبال آن مسئولیت دارید فکر کنید احساس استرار بکنید منتظر نمانید زمان صد درصد مناسب فرا نخواهد رسید همین حالا شروع کنید با ابزاری که در اختیار دارید کار کنید وقتی دست به بکار شدید ابزار بهتر را پیدا می کنید هیل احتمالاً مهمترین کیفیت و ویژگی مردان و زنان موفق در کار، عملگرا بودن آنهاست. موفقها زمانی را صرف فکر کردن، برنامه ریزی و تعیین اولویت ها می کنند و بعد از آن به سرعت به سوی هدفهایشان به حرکت در می آیند. در جریان قرار بگیرید وقتی روی کارهای پر ارزش تلاش می و در کارتان استمرار و مداومت دارید در یک حالت ذهنی موسوم به جاری شدن قرار می‌گیرید. تقریبا همه این حالت را در مواقعی تجربه کردند انسانهای موفق به مراتب بیش از اشخاص معمولی و متوسط در این حالت قرار می در حالت جاری بودن که بیشترین عمل کرد و بهرهوری اشخاص را رقم می‌زند اتفاقی در حد معجزه روی می‌دهد و ذهن و احساسات در شرایط مطلوب قرار می‌گیرد احساسی از وجد و شعف می‌کنید هر کاری که می‌کنید دقیق و بدون تلاش صورت می‌گیرد احساسی از آرامش خاطر و اثر بخشی شخصی بر شما حاکم می‌شود در حالت جاری بودن که قرنها در بحث شده است با روشنی، خلاقیت و صلاحیت بیشتری کار می کنید آگاهتر و حساستر هستید بینش و شم شما با دقت چشمگیری عمل می کنند به هم وابسته بودن اشخاص و شرایط پیرامون خود را میبینید. اغلب اوقات به بینش و فراست قابل ملاحظهای دست پیدا می کنید و این به شما امکان می دهد که با سرعت بیشتری به جلو حرکت کنید. به عمل عالی برسید یکی از راههای قرار گرفتن در حالت جاری بودن احساس استرار کردن است. این میل و انگیزه هرچه زودتر دست بکار شدن و به سرعت کار را تمام کردن است این انگیزه ی درونی آن بیغراری است که شما را به ادامه ی حرکت تشویق می کند احساس استرار کردن به سان مسابقه دادن با خیشتن است وقتی احساس استرار می کنید تعصبی به عمل پیدا می کنید به جای اینکه مرتب درباره کاری که می خواهید بکنید حرف بزنید دست بکار می شوید روی کارهایی که همین حالا میتوانید انجام بدهید، متمرکز میشوید تا به نتایجی که دوست دارید برسید. سرعت گام بالا دست در دست موفقیت‌های های عظیم حرکت می کند. ایجاد این سرعت حرکت بالا مستلزم آن است که شروع به حرکت کنید و به حرکت خود دوام و قوام ببخشید. تحرکی ایجاد کنید وقتی عملگرا میشوید اصل تکانه موفقیت را فعال میسازید. سازید. بر اساس این اصل، گرچه ممکن است انرژی فوق ای برای قلبه بر بیحالی در شروع کار احتیاج داشته باشید ولی وقتی شروع کردید نیاز چندانی به این انرژی نخواهید داشت. خبر خوش این است هرچه سریعتر حرکت کنید انرژی بیشتری پیدا می کنید هرچه سریعتر حرکت کنید، کار بیشتری صورت میدهید و احساس اثر بخشی بیشتری می کنید. هرچه سریعتر حرکت کنید، تجربه بیشتری به دست می آورید و بیشتر می آموزید و فرا میگیرید. هرچه سریعتر حرکت کنید، در کارتان موفقتر می شوید. احساس استرار کردن شما را در خط سریعی به حرکت در می آورد. هرچه سریتر کار کنید و کار بیشتری صورت دهید، عزت نفس بیشتری پیدا می کنید. احترام به خود در شما افزایش میابد و به احساسی از غرور و افتخار می همین حالا انجام بدهید. یکی از ساده ترین و با این حال قدرتمندترین راه های دست کار شدن تکرار کلمات همین حالا انجام بده است. همین حالا انجام بدهید. این را بارها و بارها به خود گوش زد و تلقین کنید. اگر احساس می کنید تحت تأثیر صحبت با دیگران و یا پرداختن به کارهای کم ارزش از مسیر خود خارج شده اید به تکرار به خود فرمان بدهید کارت را شروع کن. برگرد سر کارت و سرانجام اینکه چیزی به این اندازه مهم نیست که شهرت پیدا کنید که کارهای مهم را با سرعت انجام می دهید این اشتهار سبب می شود که به یکی از ارزشمندترین اشخاص در کاری که می کنید تبدیل گردید باغر ها بخورید یک از همین امروز مصمم شوید در هر کاری که می کنید احساسی از اضطرار را در خود به وجود آورد زمینه ای را که میل به مسامه کاری در شما هست ایجاد کنید تصمیم بگیرید که عادت کنید کارها را به سرعت انجام بدهید دو وقتی با فرصت مناسب یا مسئله‌ای مواجه می‌شوید بلافاصله دست به کار وقتی مسئولیتی به شما واگذار می‌شود آن را به سرعت انجام بدهید و نتیجه را هم به سرعت گزارش کنید در تمامی زمینه‌های زندگی خود حرکت سریعی داشته باشید کرد که تا چه اندازه احساس بهتری پیدا می کنید و چقدر کار بیشتری انجام می دهید کارها را یکی یکی انجام بدهید؟ در اینجا به رمز و سر قدرت واقعی می رسیم. با تمرین کردن پیوسته و مستمر بیاموزید بیاموزید که چگونه از منابع خود به درستی استفاده کنید روی یک کار متمرکز شوید جیمز آلن قورباغه را بخورید. همه اجزا و ذرات برنامه‌ریزی، اولویت‌بندی و سازماندهی به این مفهوم ساده ختم می‌شود. توانایی شما در انتخاب مهمترین کارها شروع کردن و بعد تمرکز روی هر کار تا زمان تکمیل شدن آن، کلید رسیدن به سطح بالای عملکرد و بهره‌وری شخصی است. هر موفقیت عظیم انسانی مستلزم کار سخت و متمرکز تا پایان گرفتن آن شغل است. وقتی, وقتی به حرکت, حرکت درامدید،, درآمدید، به راهتان ادامه دهید. پرداختن به کارها به شکل یکی یکی مستلزم آن است که وقتی کاری را شروع کردید، روی آن کار کنید. اجازه ندهید که حواستان پرت شود و آنقدر ادامه بدهید که 100 درصد کار به اتمام برسد هرگاه وسوسه میشوید دست از این کار بکشید و یا کار دیگری صورت بدهید به خود بگویید برگرد سر کارت با متمرکز شدن روی تنها یک کار، کاری که از همه مهمتر و ارزشمندتر است، می توانید در زمان انجام دادن آن کار پنجاه درصد و حتی بیشتر سرفجویی کنید. تخمین زده شده است که میل به شروع کردن و پایان دادن به کار، کنار موقتی کار، جمع جور کردن و دوباره آغاز نمودن، زمان لازم برای انجام دادن آن کار را تا پانصد درصد افسایش میدهد. هر بار که کاری را کنار می‌گذارید و دوباره به آن مراجعه می‌کنید باید به خود یادآور شوید که کجا بودید، چه کردید و چه باید بکنید. مجبور می‌شوید بر بیحالی خود غلبه کنید و دوباره به حرکت درآیید. باید دوباره جنبش و حرکتی در خود ایجاد کنید و به آهنگ کاری مولد بازگردید. اما وقتی خودتان را به طور کامل آماده میکنید و دست به کار میشوید وقتی اجازه نمیدهید قبل از تمام شدن کار تحت تأثیر عوامل دیگری حواستان پرت شود و دست از کار بکشید انرژی اشتیاق و انگیزه ای پیدا میکنید بهتر و باز هم بهتر میشوید و مولدتر میگردید سریعتر کار میکنید و موثرتر واقع میشوید وقت را تلف نکنید واقعیت این است وقتی روی کار شماره یک خود تصمیم گرفتید هر کار دیگری جز آن کار اطلاف وقت به حساب می آید هیچ کار دیگری به اندازه این کار ارزشمند نخواهد بود هرچه بیشتر به خود نظم و ترتیب بدهید که بدون وقفه روی یک کار به خصوص متمرکز شوید کارایی بیشتری پیدا می کنید. کارتان از کیفیت مطلوبتری برخوردار می شود و در زمان کتاه به پایان می رسد. نقش مهم نظم و انضباط شخصی آلبرت هیوبارد نظم و ترتیب شخص را توانایی وادار کردن خود به انجام دادن کارهایی که باید انجام گیرند در زمانی که باید انجام بگیرند حال چه دوست داشته باشید یا نداشته باشید تعریف کرده است مهم اینجاست که در تحلیل آخر موفقیت در هر زمینه‌ای مستلزم داشتن نظم و ترتیب شخصی است نظم و ترتیب شخصی، احاطه بر خود و کنترل خیشتن بلوک های ساختمانی عمل کرد در سطح بالا هستند. شروع کردن با کارهایی که از اولویت فراوان برخوردارند و ماندگار شدن در آن کار تا زمان تکمیل شدن 100 درصد آن آزمون واقعی منش، قدرت اراده و عزم راسخ شماست. مداومت داشتن همان نظم و ترتیب شخصی در عمل است. خبر خوبی است، هرچه بیشتر خودتان را عادت بدهید که روی کارهای عمده و اصلی باقی بمانید، بیشتر خودتان را دوست می‌دارید و بیشتر به خودتان احترام می‌گذارید. و به همین اندازه، عزت نفس شما افزایش می و هرچه بیشتر به خود احترام بگذارید، راحت‌تر می به خود نظم و ترتیب بدهید تا با مداومت و استمرار بیشتری کار کنید. اینگونه به شخص برتر تبدیل می گردید، قویتر، لایقتر، مطمئنتر و شادتر میشوید. احساس قدرت بیشتری می کنید و بهره‌وری در شما افزایش می آبد. و سرانجام در موقعیتی قرار می گیرید که می به هر هدفی دست پیدا کنید، شما حاکم بر سرنوشت خود میشوید خود را در جهت یک مارپیچ بالا رونده در زمینه اثر اثربخشی شخصی قرار می دهید و اینگونه آینده خود را تضمین می کنید و کلید دستیابی به همه اینها در این است مهمترین کاری را که در هر لحظه می توانید انجام بدهید مشخص سازید و آنگاه غرباغ را بخورید. گرباقه را بخورید یک دست به شد تصمیم بگیرید از امروز مهمترین کاری را که میتوانید تکمیل کنید انتخاب کنید و بعد بلافاصله شروع به کار نمایید دو وقتی مهمترین کارتان را شروع کردید تا صد درصد آن را تمام نکرده اید دست از کار نکشید این کار را در حکم آزمونی در نظر بگیرید که مشخص می کند آیا می توانید روی تصمیم خود باقی بمانید و آن را به مرحله اجرا بگذارید شروع کردید آنقدر ادامه بدهید که کار تمام شود. هشتاد به 20 را در همی کار کنید نتایج را در مفلی خلاق را پیبست رو روش علشان را تمری کلیدی به اون سراب بکنید مهارت های کلیدی خود در هم لحظه موانع مهم پیش خود را استعادت های خود به خودتان فشاه بیاند تمام منده های باید کار بیشتر, بیشتر. به خودتان انگیزه بکنید محبور تکنولوژی نشد ها... به اجزای برای, برای هر کاری زمانی در نظر بگیرید احساس استراب کارها ده. یکی یکی انجام بدهید. راه رسیدن به خوشبختی، رضایت خاطر، موفقیت عظیم و احساس شگفتنگیز دستیابی به قدرت و اثر بخشی این است که عادت کنید همه روزه وقتی دست بکار می شوید، گرباغی خود را بخورید. خوشبختانه این مهارتی آموختنی است که می توانید آن را در صورت تکرار به دست آورید وقتی عادت کردید که با مهمترین کارتان شروع کنید موفقیت شما تضمین شود. در ادامه مطلب خلاصه ای از 21 روش عالی برای غلبه بر امروز و فردا کردن و انجام دادن کار بیشتر در زمان کمتر ارائه شده است این قواعد و اصول را به طور منظم مرور کنید آنها را در ذهن و در عمل خود جای دهید تا بتوانید آینده ای تضمین شده پیدا کنید را بچینید. دقیقاً تصمیم بگیرید که چه می‌خواهید. دانستن روشن و دقیق این موضوع بسیار مهم است. قبل از اینکه دست به شوید، هدف‌هایتان را مکتوب کنید. هر روز را از قبل برنامه ریزی کنید روی کاغذ فکر کنید هر دقیقه ای را که صرف برنامه ریزی کنید 5 تا ده دقیقه در اجرای کار صرف جویی می کنید. سی قاعده ی 80 به 20 را در همه کارها رعایت کنید. 20 درصد فعالیت‌های شما، 80 درصد نتایج کارتان را سبب می‌شود. همیشه کارهایتان را روی 20 درصد اول متمركز سازید. چهار. نتایج را در نظر بگیرید. مهمترین کارها و اولویت‌های شما آنهایی هستند که می‌توانند نتایج و پیامدهای جدی مثبت یا منفی در زندگی و کارتان به وجود آورند. روی اینها متمرکز شوید. تمبلی خلاق را تجربه کنید از آنجایی که نمیتوانید همه کارها را انجام بدهید باید بیاموزید که عمدن بعضی از کارها را که ارزش کمتری دارند به بعد موکول کنید تا برای انجام دادن معدود کارهای مهم وقت و زمان کافی داشته باشید ایوسته روش تمرین کنید. قبل از اینکه بر اساس فهرست کارها و وظایف خود شروع کنید، لحظاتی وقت بگذارید و ارزش و اولویت هر کدام را تعیین کنید تا مهمترین کار پیش رویتان مشخص شود. به شاخصه های کلیدی بیندیشید نتایجی را که برای رسیدن به هدفتان باید به آن برسید مشخص سازید و بعد تمام مدت روز را روی آنها کار کنید قانون 3 را به کار ببرید. سه کاری را که انجام می دهید و 90 درصد اثربخشی شما را مشخص می کند شناسایی کنید. قبل از انجام دادن کارهای دیگر این کار را انجام بدهید. اینگونه فرصت بیشتری پیدا می کنید که آن را صرف خانواده و زندگی شخصی کنید. قبل از اینکه شروع کنید، تدارک ببینید. تدارک صحیح و از قبل مانع از عمل ضعیف می شود. در هر لحظه روی یک کار متمرکز شوید. می توانید بزرگترین و پیچیدهترین کارهایتان را یکی یکی به انجام برسانید. مهارت‌های کلیدی خود را افزایش دهید. هرچه علم و اطلاع بیشتری به دست آورید، سریعتر کارتان را شروع می‌کنید و سریعتر آن را به انتها می‌رسانید. استعدادهای خاص خود را تقویت کنید دقیقاً مشخص کنید در چه کاری خوب هستید در چه کاری می توانید خوب باشید و بعد با تمام وجود به این کارها بپردازید موانع مهم پیش روی خود را شناسایی کنید تنگناها و گلوگاه را که سرعت دستیابی شما را به هدف مشخص می کنند شناسایی کنید و بکوشید که این تنگناها را از میان بردارید 14. به خودتان فشار بیاورید تصور کنید که به مدت یک ماه باید شهر را ترک کنید دست به کار شوید و مهمترین کاری را که باید قبل از ترک شهر انجام دهید به اتمام برسانید توانمندی های خود را به حد اکثر برسانید ببینید که در چه مقطعی از روز آمادگی انجام دادن کارهای بیشتری را دارید کارهای مهم و اصلی خود را در این مقاطع زمانی انجام بدهید کارهای کم اهمیت را کنار بگذارید تا بتوانید کارهای اصلی را انجام بدهید برای کار بیشتر به خودتان انگیزه بدهید به خودتان انگیزه بدهید در هر زمینه و موقعیتی دنبال چیزهای مثبت باشید به جای مسئله روی راه حل تمرکز کنید همیشه خوشبین و سازنده باشید مقهور تکنولوژی نشوید از تکنولوژی برای بهتر کردن کیفیت ارتباطهای خود استفاده کنید اما برده و بنده تکنولوژی نشوید بیاموزید که در مواقعی از تکنولوژی فاصله بگیرید کار را به اجزای کوچکتری تقسیم کنید. کارهای بزرگ و عظیم را به اجزای کوچکتری تقسیم کنید و بعد به ترتیب جزء به جزء آنها را انجام بدهید. ده. برای هر کاری زمانی در نظر بگیرید برای هر کاری زمان کافی در نظر بگیرید تا در این فرصت بتوانید روی مهمترین کارهایتان تمرکز کنید احساس اضطرار بکنید. عادت بکنید که کارهای مهمتان را به سرعت انجام بدهید. به این شهرت پیدا کنید که کارهایتان را به سرعت انجام میدهید. یک. کارها را یکی یکی انجام بدهید اولویتها را به روشنی مشخص سازید و بلا فاصله با مهمترین کار شروع کنید کارتان را بدون وقف ادامه دهید تا صد درصد آن تکمیل شود. این راه رسیدن به عملکرد بالا و حد اکثر بهروری شخصی است برباقه را بخواهید تصمیم بگیرید که این اصول را همه روزه تمرین کنید تا طبیعت دوم شما شود وقتی به این جنبه های مدیریت شخصی عادت کردید و اینها در شمار شخصیت شما قرار گرفتند آیندهی نامحدود خواهید داشت را بخورید این کار را بکنید